این رادیویی رمان پراوازه خوشهای خشم را به قلم محمد باغل رزایی می شنوید. آخرین باران هایی که نم نم روی زمین های پاره ای از خاک خاکستری رنگ اکلاهاما فروریخت نتوانست زمین ترک خورده را شیار کند گاواهان ها گرته جویبار ها را می و باز می بریدند آخرین باران ها را به تندی رویاند و انبویی از علف های درهم در طول جاده گسترد علف های جنده و در هم به سوی ریشه فتیله شدند هوا ملایم بود و آسمان بیرنگ و هر روز زمین رنگ پریده تر می شد هر جنبندهی گرد و غبار به هوا می کرد و پیاده ها پوسته نازکی از گرد و خاک را به بلندی اقامتشان بر می انگیختند. نیز گرد و غبار را به بلندی پرچین ها می پراکندند و اتومبیل ها ابری مواج و غلیز به دنبال خود راه میانداختند مردم در کیهزارها ابرها را مینگریستند آنها را بو میکشیدند و انگشتهایشان را تر می کردند که جهت باد را بیابند های طوفان چند نمی باران میچکاندند و سپس با شتاب به سوی سرزمینهای دیگر میگریختند پشت سر آنها دوباره آسمان بیرنگ و آفتاب سوزنده میشد تلخی گزندهای در هوا بود زنها و مردها به خانهاشان پناه می بردند و هنگام بیرون رفتن دستنالی به بینی می و برای حفاظت از شعشنها اینکهای دور بسته میزدند. در خانه ها کیب بود. درزای در را هم با جل بتونه کرده بودند. ولی غبار به نرمی به اتاق را می آفد. انقدر نرم که دیده نمیشد و و مانند گرده روی صندلی ها میز ها و ظرف ها می نشست. مردم، غبار را از شانهاشان می تکندند و می پرسیدند چه باید کرد و برقی پاسخ میدادند نمیدانیم. نمی دانیم. زنها و بچه ها در دلشان می دانستند که اگر مردهاشان آسیبی ببینند هر فلاکتی آمدنی است. مردها در آستانهای خانهایشان نشسته بودند با چوب دستی ها و سنگ ریزه ور می و فکر می کردند. حساب می کردند. آنسودر، کامیون بزرگ سرخ رنگی جلو مهمان کوچک در کنار جاده ایستاده بود. لوله ای اگزوزش به نرمی خورخور می کرد. دودی آبی و تقریبا نامرعی از آن بیرون می زد. کامیون نوعی بود که رنگ سرخ براقی داشت. روی آن با حروف دروش نوشته بودند اکلاهاما سیتی ترانسپورت کمپانی. زاپاسهاش نو بود و یک قفل برنجی بزرگ پشت در بزرگ عقب کامیون به چشم خورد. روناندی کامیون یگانه مشتری مهمانخانه روی چهارپایه‌ای بلندی نشسته بود و قهوهش را مثل همهی آدم‌های بیابانگرد سر می کشید. بیرون مردی که از کنار جاده میگذشت به کامیون نزدیک شد، یواش یواش جلو آمد و دستی روی سفر آن گذاشت. چشمش به برچسب افتاد که رویش نوشته بودند: حمل مسافر ممنوع. یک لحظه به نظر رسید میخواد راهش را دنبال کند ولی پشیمان شد. روی رکاب ماشین طرف مقابل مهمانخانه نشست و منتظر راننده کامیون شد. بیشتر از سی سال نداشت و دستایش پینه بسته بود. راننده کامیون که آهسته آهسته می جوید از مهمانخانه بیرون آمد، در حالی که به طرف کامیون می‌رفت، را زیر زبانش می‌رلکاند و آن را توی دهانش میزان می کرد. مردی که منتظر نشسته بود تند بلند شد، به طرفش رفت و پرسید: آقا میتونین منو تا یه جای سوار کنین. راننده دزدکی نگاهی به مهمان خانه کرد و گفت: مگه برچسب رو ماشین ندیدی؟ چرا دیدم. اما خب بعض وقتا آدمای با معرفتی پیدا میشن که راننده توی کامیون نشست و کمی فکر کرد. اگر این خواهش را نمیپذیرفت نه تنها آدم با معرفتی نبود، بلکه مطیع قانون بود و حق نداشت هم سفر داشته باشد. حس کرد توی بمبست افتاده است. اما چاره ای نبود. میخواست آدم بامعرفتی باشد. دوباره به مهمانخانه نگاه کرد و گفت خیلی خوب. روی رکاب کس کن تا از خم جاده رد شیم. مسافر خودش را پایین کشید تا دیده نشود. دستگیر را گرفت و روی رکاب نشست. لحظه ای بعد موتور گرید. کیلومتر چمار جنبید و کامیون برافت افتاد دنده یک، دو، سه، و بالاخره یک ناله دراز و دنده چهار. جاده زیر نگاه مرد چون زده می گریخت. به خم جاده چیزی نمانده بود. وقتی رسیدند سرعت کم شد. مسافر خاکالود آهسته برخاست، در را باز کرد و به داخل اتاقک کامیون لغزید. راننده از میان پیلکای نیمه بازش او را ورانداز کرد. سقزش را می جوید و در همان حال به کلاه مرد مسافر چهش دخت. مسافر کلاهش را برداشت تا پیشانی و چانه خیس از عرقش را پاک کند گفت خدا پدرت بیامرزه پاهام از خستگی لولورده شده بود راننده اندک اندک تند کرد و پرسید خیلی دور میری نه اگه پاام خسته نشده بود می‌تونستم پیاده برم دنبال کار میگردی نه بابام یه مزرعه داره چهل جریب میشه خودشم زراعت میکنه خیلی وقته راننده نگاه داری کرد زیر لب گفت ان یه مرزعه چل جریبی که خاک روشو نگرفته و تراکتور صاحبشو بیرون ننداخته مسافر گفت اما راستش اینه که من خیلی وقت از بابام بیخبرم راننده پوسخندی زد و گفت حدس میزدم، از دستاد پیداست که زراعت نکردی تو احتمالاً با کلنگ تبر یا چکش سر و داری چون دستاد پینه بسته است ایناست که دست و پینه دار میکنه. حالا اسم چیه؟ اسمان جاده. تومجاد. به بابا من میگن بابا تومجاد. صدای چرخها و خرخر تند کامیون سنگین شد. کامیون در جایی که کور راهی زاویه قائمه جاد درمی برید استاد. تومجاد پیاده شد. دم در کامیون ایستاد و گفت خیلی با معرفتی داداش. خدا حافظ. زنده باد. همین که منو تا اینجا آوردی خیلی ممنون. از اینکه راننده میخواست از توتوی توی زندگیش سر درآورد ناراحت بود ولی چیزی نگفت و راه افتاد. راننده داد زد: "احمد تو, تو هم نکن. چرا اوقات تلخ شده؟ من که نمیخواستم از کارت سر درارم." جاد گفت: "من چیز پنهون کردنی ندارم." و توند رفت. راننده با نگاه دنبالش کرد. جاد بیان که رویش را برگرداند دستش را تکان داد. کامیون خرخر کرد. كیلومتر شما جنبید و کامیون بزرگ یواش یواش دور شد تومجات قدمهایش را تند کرد تا از آفتاب بگریزد و جایی برای استراحت بیابد جایی مردی روی زمین نشسته بود و به درختی پشت داده بود پاهایش را روی هم انداخته بود و یکی از آنها را تا سرش بالا آورده بود تومجات مقابلش ایستاد و گفت تو جاده هوا مثل جهنمه مرد نشسته نگاه پرسندهای به او انداخت شما تومجاد پسر باباتون نیستی چرا خودمم دارم برمیگردم خونه مرد گفت منو یادت هست؟ نه گمون نمیکنه اون وقتی که من براتون روح رو نازل میکردن شما سرتون تو کارهای دیگه بود تومجاد با چشمان فرو افتاده او را نگاه کرد و زد زیر خنده عجب پس شما کشیش هستین کشیش بودم اسمم علی جناب جیم کیزی بود آهی کشید ولی الان جیم کیزی خالی هستم. دیگه نور خدا تو دلم نیست برعکس همش فکرای معصیت دار تو کلمه دیگه مؤذرو گذاشتم کنار بدتر از همه اینه که دیگه خودمم از خدا چیزی نمیفهمم فکرم دیگه اون فکر سابق نیست دیگه نسبت به خیلی چیزا اعتمادمو از دست دادم مرد آهی کشید. حرفایش را بد کرد و پرسید شما مسافرت بودین؟ تومجاد نگاه شکداری به او کرد و پرسید چطور؟ مگه درباره من چیزی نشنیدین؟ همه روزنامه ها نوشتن؟ نه، اصلا چطور مگه؟ من چهار سال تو زندون مکالستر بودم. کیزی به تندی به او خیره شد. ابروهایش به اندازه پایین آمد که جلوی چشمش را گرفت. گفت اگه کار بدی کردید من چیزی ازتون نمیپرسم. جاد گفت اگه پیش بیاد بازم میکنم تو دعوا یکی رو کشتم. اون به من چاقو زد منم کندش رو کردم. کیزی گفت که این تو خب هیچ هیچم پشیمون نیستی. نه ابدا هفت سال محکومم هم کردم. سر چهار سال تعهد دادم و آزاد شدم. پس چهار ساله که از خونتون بیخبری. نه دو سال پیش مادرم برام یه کارت تبریک فرستاد. سال پیشم مادر بزرگم یک کارت فرستاد. کیزی بلند شد. گفت ولی من خیلی وقت باباتون رو ندیدم. میخواستم برم ببینمش. من مدتها تو خانواده شما مبشر مسیح بودم و یه دفعه هم رون چیزی بخوام. هرگز چیزی نخواستم. مگر اینکه گاهگاه گاه گاه تکنونی بگیرم و وصله شکم هم کنم تمجاد گفت خب پس حالا بیا بریم پیشش پدرم از دیدن شما خیلی خوشحال میشه او همیشه میگفت شما چیز فهمتر از بقیه هستید کیزی کمی فکر کرد سپس که را رو برداشت دوددی را کنار گذاشت و با تمجاد مانند شناگرانی که برای رسیدن به ساحل بشه خودشان را درون روشنایی زردرنگ انداختند اینک ساقه های سایهاشان را از پهلو به زمین میانداختند و هوای داغ از بوی گس شن پر بود توی راه کیزی با دیدن مزاره خاکالود گفت پیش از این گردخاک ها وضع زراعت خوب بود تومجاد گفت تا اونجایی که من یادم میاد زراعت ما هر سال پربرکت به نظر می رسید ولی هیچ سالی چیزی آیدمون نمی شد هر دو به دشواری در گردخاک پیش رفتند و به بالای پشتهی رسیدند جاد نرده ای را نشان داد و گفت زمین ما از اونجا شروع میشه کیزی نگاه کرد پرچین ها از بین رفته بودند کیزی پیشانیش را با آستین پاک کرد و گفت بابا دادم اصابیه چشمای جاد در اون یادبودهایش گم شده بود از پشته گذشتند و به زمین باباتم رسیدند جاد گفت انگار مثل اون وقتا نیست نگاه کن یه اتفاقی افتاده هیچکس نیست پرنده پر نمیزنه دوتایی همون جایی که بودن دیستادند کلبه چوبی کنار زمین در هم شکسته بود و واژگون به نظر میرسید جاد به سرعت جلو رفت و لب گفت یه نفذ کش پیدا نمیشه کیزی هم به دنبالش روان بود جاد دم سکویی که اساسیه را رویش میگذاشتند دیستاد روی سکو چیزی ندید فقط خیش شکسته گاواهنی و انبوهی سیم آهنی در گوشهی و حلقه شکسته داستی، منگوله گردن قاطری که آن را جویده بودند، دب به روغنی که از چربی و گرد و خاک آلوده بود و لباسکار آبی رنگی که به میخ آویزان بود، چیز دیگری به چهش نمیخورد. توم با صدای بلند گفت، دیگه چیزی نمونده، خیلی اسباب و اساسیه داشتم، هیچ چی نمونده. کیزی گفت، اگه هنوز اهل گفتفتم به غضب خدا گرفتار شدیم. اما فعلا چیزی نمیدونم. من اینجا نبودم، چیزی هم نشنیدم. کنار آبشخور خشکیده ایستادند. از اللفهایی که معمولا زیر آبشخور میرویدن نشانی نبود. چوبهای های کلفت و کهنه آبشخور خشک و ترکیده بود. روی حلقه چا پایه تلمبه از دهنه بیرون زده بود. مهرهها و پیچهایش زنگ زده بود. جاد گفت: «شاید همشون مردن. کیزی پرسید از مرخص شدن تو خبر نداشتن؟ نمیدونم نه گمون نمی کنم. خودم هم تا یه هفته پیش خبر نداشتن خیلی خوب بریم خونه رو ببینیم معلق شده یه اتفاقی افتاده آهسته به سوی خانه واژگون پیش رفتن. دو دوتا از دیرک های زیر رواق را کشیده بودند یک طرف بام فرو ریخته و نصف خانه خراب شده بود جاد گفت از اینجا رفتن شاید مادرم مرده باشه دریچه را به کیزی نشان داد اگه مادرم بود این دریچه رو میبست کلونم مینداخت هیچ وقت این کار یادش نمیرفت جلوتر رفت و آشپزخانه رو نگاه کرد آنجا هم هیچ اساسی نبود تنور داغان شده بود و از سوراخ گرد دودکش نور به درون آمد. روی کف آشپزخانه پر از سنگریزه بود غباری نرم تمام تخته آشپزخانه را پوشانده بود. توم آمد این طرفتر. اتاق خواب را نگاه کرد. نه تخت خواب بود، نه صندلی هیچ چیز. زیر گفت، نه، از اینجا رفتن و همه چیز را به خودشون بردن. خورشید آنقدر پایین آمده بود که به لبه خورده های روی زمین می درخشید. جاد برگشت، لبه ایوان نشست و پاهایش را روی پله چوبی گذاشت. که در روشنی غروب قوطه میخوردند. کیزی هم پلوی توم نشست و هر دو ساکت به دور دستا خیره شدند دقایقی بعد تومجاد از کتش جعبه ای در آورد. در آن را باز کرد، سیگاری پیچید، آن را صاف کرد و آتش زد. بعد نفس بلندی کشید، دود را از بینیش بیرون داد و گفت حتما اتفاق بدی افتاده. نمی‌دونم چی شده اما مسلماً اتفاق خوشی نبوده خونه زیر و رو شده هیچ کس نیست حتما اتفاقی افتاده. گربه خاکستری نظاری از طویله بیرون خزید از خلال ساقه پنبه گذشت و پشت سر سراندو نشست جاد با ایجان گفت به خدا یکی اینجا هست اینو ببین دستش را دراز کرد اما گربه با جستی در رفت کیزی گفت چطوره که هیچ کس سختهایی خونه را نکنده ببره این غیر عادیه آدم ها سردرگم میکنه و نمیشه سر رو برد. جاد پرسید خب شما از این چی میفهمی؟ نمیدونم انگار همسایه هم رفتن همه رفتن اگه بودن تختهای به این خوبی همینطور دست نخورده نمیموند آفتاب سرخ به افق رسیده بود کیزی ناگان ساکت شد گفت یکی داره نزدیک میشه نگاه کن اونجا، اون پایین جاد جهتی را که انگشت کیزی نشان می دنبال کرد و گفت آره پیاده است مرد نزدیک تر که شد جاد با لبخندی گفت ههه می شناسمش مولی گریفزه رسدازد هو مولی مردی که نزدیک میشد شد حاج و باج ایستاد سپس تند کرد مرد کتا قد و لاغری بود یک گونی در دست داشت و شانه و آرنج آسینهاش هاش پاره شده بود. جلوتر که آمد داد زد کی هستی؟ تومجاد پاسخی نداد. مولی بیافاره را نشناخت مگر وقتی که کاملا نزدیک شد. گفت اوه عجب اتفاقی تو هستی توم؟ کی در اومدی؟ تومجاد گفت دو روزه. ولی اینا کجام؟ چرا خونم همچی ویرونه شده؟ مولی گفت چه خوب شد که از اینجا رد شدم و شما رو دیدم امون توم خیلی دلواپس بود وقتی تصمیم گرفتن برن، من اینجا پیششون بودم بهشون گفتم گفتن من هرگز جایی نمیرم اما اونا تصمیمشون رو گرفته بودن. میخواستن برن بابات می دلواپس توه. میگفت یه وقت میگه که دیگه هیچ که اینجا نیست جاد با نگرانی پشتید کجا رفتن وقتی بانک تراکتورش رو فرستاد که زمینها را شخم بزنه همه خونوادت خاستن جلوشون دربیان پدربزرگت با تفنگش جلوشون سبز شد و چراغای ترکتورشون رو خورد کرد اما تراکتور که به این چیزا وانی رانندش رانندهاش بود که از لجش اومد تا دم خونتون ترکتور زد بخونه خونه رو لرزوند بابات از خشم زیر رو شده بود همش خودشو میخورد دیگه اون آدم پیش نبود ویلیفینی میگفت من معمورم و معذور خوب حالا کجا هستن بهت میگم با گاری اموجان رفتن کجا خونه امو دیگه اونجا چی کار میکنن رفتن که از اونجا یه ماشین باری بخرن و برن به طرف مغرب بقیه هم دارن همین کارو میکنن میگن اونجا زندگی آسونتره اینجا دیگه هیچ کاری پیدا نمیشه از بیکاری داره پدر مردم در میاد ولی من هیچ جا نمیدونم همینجا میمونم جاد پرسید پس هنوز را نیفتادن درن مغرب؟ نه تا اونجا که من میدونم نه داداشت میگفت خیال دارن تا 15 روز دیگه برن پیرجی ساکت بود و فکر میکرد جاد پرسید حالا چرا مردمو در بهدر کردن تقصیر مالکاست. است میگن ما دیگه نمیتونیم نمیدونیم مستاجرامونو نگهدارییم با تراکتوراشون اومدن همه رو جارو کردن جاد عصبانی بود گفت تعجب میکنم. چطور شده که پدر بزرگ کسی رو نکشته هیچ وقت کسی نمیتونست از به ایز زور بگه مادرم هم آدمی نبود که بتونن بیرونش بندازن چطور به این سادگی رفتن مولی گفت خیلی ها جستجو کردن که ببینن بالاخره حساب حساب کیو باید رسید؟ ولی کسی را پیدا نکردن راننده تراکتور میگفت دستور شرکته من گناهی ندارم چه شرکتی؟ کمپانی کشاورزی و دامپروری شاونی تومجاد به فکر فرو رفت تاریکی از جانب خاور روی زمین لغزید ستاره تابناک زهره پدیدار شد و گربه خاکستری به سوی انبار مخروبه رفت جاد گفت در صورت امشب نمیشه تا خونه اموجام رفت. هشت مایل راهه. مولی امشب باید پیش تو سر کنیم. من و کیزی. تو کیزی میشناسی؟ آلی جناب کیزی؟ مولی با ایجان گفت البته البته من متوجهشون نشده بودم. آره خوب میشناسمشون. دست کیزی را گرفت و همدیگر را نگاه کردن مولی پرسید خیلی وقتی که دیگه این طرف پیداتون نیست. کیزی گفت من رفته بودم بعضی چیزا رو بفهمم جاد پرید وسط حرفاشان خیلی خوب بریم خونت مولی مولی با کمی ناراحتی گفت اصلا جور در نمیاد زنم و بچه بچههان با برادر زنم همه رفتن کالیفرنی دیگه هیچ خوراکی تو خونم پیدا نمیشه ولی بریم یه خرگوشی چیزی میزنیم میخوریم بریم سه مرد پشت سر همدیگر از میان کهزارها که میرفتند خسته بودند پایشان زمین را میمالند در شهرها در کنار شهرها حتی در دشتها انبارها از اتومبیل مستعمل پر بود و برای کوچ فروخته میشد اون بچه دارا رو می بینی؟ یه ماشین بهشون نشون بده از دیویز شروع کن تا به صد و بیست بشن گرمشون کن هر دو شده یکی رو بهشون قالب کن بیا فیز بپا اگه اون خوشش بیاد میشه سرش صائبهه های مستعمل به فروشندگانشان توصیه می‌کردند هر طور شده باید ماشین ها را رد کنند و تا این کوچای اجباری هست بارشان را ببندند. شما کالیفرنی نمی‌بینین؟ درست همین ماشین به دردتون می‌خوره. ظاهرش خوب نیست اما هنوز هزارها کیلومتر محل داره بره. توم و کیزی شب در خانه مولی خوابیدند. صبح زود مولی گفت از اینجا به بعد بهتر دو برین. من اینجا خیلی کار دارم. ای نبود. سه مرد با هم خدافزی کردند و از هم جدا شدند. تنب به کیزی مدتی آرام و خاموش را بودند. کیزی پرسید مولی اینجا چیکار میخواد بکنه؟ هیچی بابا دیوونه است؟ این سرگردانی و دربدری دیوونگی میاره. همین روزا میزنه یکی و میکشه و میگیرنش. این حقیقت برام مثل روز روشنه. با هم حرف میزدند و نمیفهمیدند آن همه را چگونه میشود. ناگان جاد گفت اونجا رو ببین آبانبار اموجانه هر دو قدم تند کردند اکنون ساختمان و آبانبار جان را به وضوح میدیدند تومجاد گفت خدا کنه همشون باشن جلوتر که رفتند کامیونی جلو خانه دیدند جاد گفت یا خدا انگار میخوام برم صدای ضربات چکش از حیات شنیده میشد تومجاد به کیزی گفت سر و صدا نکن یباشکی بریم گیرشون کنیم مدم ها سس شد انگار می ترسیدن پیشتر بروند ولی رفتند و به کامیون نزدیک شدند توم با ناراحتی دوران آن چرخی زد کامیون از نوع سوپر سیکس بود که سقفش در اثر سرمار شکاف برداشته بود باباتوم بالای کامیون در حالی میخکوب کردن آخرین تختهها به دو کناره بارگیر بود تومجات جلو رفت و به کامیون تکیه داد پدرش او را نگاه کرد ولی نشناخت میخ دیگری به تخته زد توم با انگشتان خود روی نرده بارگیر ضرب گرفت. بابوتوم با دهان پر از میخ وررید. کلاه نمدی فرسوده ای سرش بود. چکو را که آماده کوبیدن میخ بود در همان نگه داشت و از فراز کناره کامیون تازه رسیدره نگاه کرد. با شگفتی چنان که گویی به خودش خبر میدهد گفت: اوه تومیه. سپس باز هم انگار به خود میگفت گفت: تومی برگشته. دهانش از نوباز شد. و برق ترسی در چشمانش درخشید با ملاطفت گفت تومی در رفتی باید قایم بشی مضترب و دلوپس منتظر حرفی از پسرش بود توم گفت نه من تعهد دادم و آزادم کردن من آزادم همه اسناد و اوراقم با همه. دستش را به نردههای کامیون گرفت و سرش را بالا کرد باباتم چکش را به آرامی پایین انداخت میخها را در جیبش ریخت بر پا گذاشت و آهسته تا زمین لغزید ولی همین که در برابر پسرش قرار گرفت، ناراحت و غریبه به نظر آمد. گفت: "تومی، ما میریم کالیفرنی. می‌خاصم اینو سد بنویسیم. بعد مثل اینکه به گفته خود نمیاندیشد گفت: "اما تو حالا برگشتی، میتونی با ما بیای. میتونی بیای؟ چشمایش از شوق میدرخشید. ادامه داد: "خب، حالا بریم قافلگیرشون کنیم. مادرت می‌ترسید که دیگه هرگز نتونه تو رو ببینه. مثل اینکه مطمئن بود تو مردی." دستش را با مهربانی و کمرویی بر شانه پسر کشید. همون لحظه به کیزی نگاه کرد. توم گفت پدر آلی جناب کیزی را به خاطر میاری؟ اونم با ما میاد. با توم پرسید آلی جنابم تو زندون بودن؟ نه من تو را دیدمش. پدر با کیزی دست داد. دست او را محکم فشرد و گفت خوش اومدین آقا. بعد رو به پسرش گفت بیا بیا بریم تو. مادر داره غذا درست میکنه، باید تو رو ببینه. وقتی داخل شدند، بابا توم در آستانه در پا گذاشت، ایستاد و مدخل را با تنه کتوله خود بست. آنگاه گفت، زن، دو نفر از را رسیدن و میخوان اگه ممکن باشه بهشون غذایی بدیم. توم صدای مادرش را شنید. صدایش دلنشین، سبک آرام، محبت آمیز و نجیبانه بود. بفرمایین، بفرمایین آقایون. توم کمی ناراحت از آستانه در گذاشت. مادر چشمایش را از مایتا به بر گرفت و چنگال از دستش بر زمین افتاد چشمایش را بست و فنجاد زد خدایا شکرت آ خدایا شکرت ناگان صورتش حالت استراوامیز به خود گرفت تومی پید نمیگردند فرار که نکردی نه مادر با قید تعهد آزادم همه اوراق اسنادم با همه دستش را به سینه‌اش کشید مادر آرام و ساکت با پاهای سیاه بدون جوراب به او نزدیک شد چهرهاش پر از شگفتی بود. با دست کوچکش بازوی پسر را لمس کرد و استواری اولاتش را آزمود. سپس چون کوری انگشتانش را تا گونه های پسر بالا برد. شادیش چیزی همانند اندوه بود. در این حال همه ساکت بودند. مادر از آغوش پسر که جدا شد چشمایش را با شگفتی و لب او دوخت و آهی کشید. گفت: نمیدونستیم تو چه جوری ما را پیدا می کنی توم؟. توم دوباره مادر را در آغوش کشید. پرسید: پدر بزرگ کجاست مادر توی انبار پیش مادر بزرگته بیشتر وقتا روز می‌خوابن و شب بیدار میمونند. هر وقت دلشون می‌خواد بیرون میان مادر رو به باباتم کرد و ادامه داد مرد چرا واشادی برو بهشون بگو که تو میومده باباتم گفت الان میرم بهشون میگم و بیرون رفت و طول حیات را پیموند توم به مادر گفت خونه دیدم چه به روزگارش عوض رو مادر با صدای پرمهری گفت: آره مادر. ولی فکر نکن که میشه تنهایی در برابرشون مقاومت کرد. سک کشت میکنن. من خیلی فکر کردم تو می. خیلی چیزا فهمیدم. گمان میکنم تا الان صد هزار نفر رو مثل مادر به در کردن. خاموش شد و سرش را پایین انداخت. در همان حال زمزمه کرد: هرگز تا به حال چنین بلایی سرمون نیمده بود. هرگز ندیده بودم که دخترمو منزام تو کوچه هرگز مجبور نشده بودم هرچی دارم بفروشم. میفهمی تومی تو می؟ می الان وضع این طوریه. مادر اینجا که گفت به سوی اجاق برگشت و نانهای کوچک و پف کرده ای را توی دوشخام چید. در حیات پدر بزرگ و مادر بزرگ برای آمدن و دیدن مسابقه گذاشته بودند. و تمام قوامی دویدند و پیش می آمدند. به دنبال آنها بابا و نوها آهسته و منظم آمدند و آمدند مواظب آنها باشند. نخستین فرزند خانواده نوا درششیكل و عجیب و پیوسته با چهرهای تعجب زده آرام و متفکر راه میرفت هر چهار نفر از حیات گذشتند پدر بزرگ مرتبا میپرسید پس کجاست؟ در این هنگام ناگان توم را دید که بر آستانه در آشپزخانه ایستاده است ایستاد و دیگران را از رفتن باز داشت و گفت نگاش کن حسابی تخم زندونه چشمهای ریزش از بدجنسی برق میزد ادامه داد من هم اگه بودم درست هم این کار خیلی وقت بود که جادها تو زندون نبودن مادر بزرگ که گوشش به حرفای او نبود فریاد زد توم عجب پدر بزرگ به توم نزدیک شد دستی به سینه زد و گفت چطوری تومی؟ توم گفت تو چطوری پدر بزرگ خوشی؟ آره خیلی دیدی گفتم جادها رو تو زندون نگر نمی دارن؟ توم لبخندی زد پدر بزرگ ادامه داد من به همه گفتم آخرش میبینین که تومی مثل گاوی که از آغول فرار کنه از زندون در مینه <تصفيق> نوا روی پله ایستاده بود و به توم چشم روخته بود توم رو به او کرد و گفت چطوری نوا؟ نوا آرام گفت بد نیستم تو چطوری؟ توم سرتکان داد هر دو خاموش شدند و به هم نگاه کردند همین احوال پرسی به آنها تسلی داد ناگان توم گفت آه پس کیزی کجاست؟ الان اینجا بود کجا رفته؟ به سرعت بیرون رفت پروی پر در ایستاد و صدا کرد جیم جیم کیزی کیزی از پشت مغزن آب نیمخیس شد و جواب داد بعد از جا برخاست و به توم نزدیک شد چیکار میکردی جیم قایم شده بودی نه رفتم اونجا فکر کنم کارهای خونوادگی که به دیگران ربطی نداره خیلی خوب بیا غذا بخوریم مادر بزرگ میخواد براش دعا کنی ولی من دیگه خیلی خوب حالا بیا بخون برای تو که ضرری نداره پیش رفتند و به خانواده نزدیک شدند مادر به آرامی گفت خوش اومدین پدر هم گفت خوش اومدین به یه چیزی مادر بزرگ فریاد زد نه اول دعا اول دعا. بعد از دعا و خوردن غذا بابا کیزی، نوا، پدر بزرگ و توم برخواستند و به سوی کامیون رفتند توم کاپوت کامیون را بلند کرد و موتور چرب و روغنی آن را از نظر گذراند پدر به اون نزدیک شد و گفت پیش از این که اینو بخریم برادرت آن خوب امتحانش کرد گفت ایبی نداره و خیلی خوبه توم گفت اون چی میدونه هنوز دهنش رو شیر میده باباتون گفت ولی پارسال شوفر کامیون بود برای یه کمپانی کار میکرد یه خورده سررشته داره حتی میتونه موتور کامیونو باز کنه و ببنده توم گفت اگه منظورت روندن کامیونه من بلدم تو مکالستر کارم روندن کامیون بود پدر گفت خوب بهتر و چشم به راه دوخت آل را دید که دارد میآید گفت اگه عوضی نگرفته باشم این اله که داره دماغ میاد توم و کیزی چشمایشان را به سوی جاده برگرداندند آل همین که دید به اون نگاه میکنند سینهاش را پهن کرد و با غرور و تفاخر به آنها نزدیک شد او میدانست که چون برادرش توم آدم کشته بچه های همسنش او را با نظر تحسین نگاه میکنند حتی میدانست که او را با انگشت به هم نشان میدهند و میگویند این آل جاده برادرش توم جاد زده یکی رو با بیل کشته آل با فروتنی به برادرش نزدیک شد و دید آنطور هم که خیال میکرد برادرش وحشت آور نیست توم گفت سلام آل چه بزرگ شدی اصلا نمیشه شناخته آل در همون لحظه که توم میخواست دستش را بفشارد لبخند زد و گفت در رفتی؟ از اندون در رفتی؟ نه تعهد دادم و آزاد شدم آل کمی جا خورد ولی چاره نداشت که باور کند هم دیگر را بغل کردند همه اعضای خانواده در تلاش بودند بارها را پشت کامیون بچینند طوری که همه آن خوردریز ها تویش جا بگیرند نوا گفته بود اگر نرده های کامیون وصل کنیم شاید تومی بتونه همه بارها رو جا بده و حالا همینطور شده بود بارها را توم جا داده بود و بیشتر از همه آل کمک کرده بود وقتی کامیون انباره از اساسیه سبک و سنگین برای فروش تخت و خوابها و تشکها و همه نوع اشیاء منقول قابل فروش به افتاد، کیزی فهمید که خانواده ایجاد میخواهند برای رفتن بارهایشان را سبک کنند. پدر و اموجان سوار کامیون شدند. آل پشت فرمان قرار گرفت و حرکت کردند. بچه‌ها هم پریدند روی بارها. بعد از رفتن کامیون توم سرگردان بود. مادرش در آشپزخانه لباسها را در لگن میشست. توم به اون نزدیک شد و پرسید خب کی دستمون داریم بریم مادر که بازوی چاقش پر از خالهای قهوه‌ای بود و قطرات کف صابون از آرنجش فرو می چکید، دست از شستن برداشت مدتی به پسرش چشم دوخت گفت تومی ان هرچه هر چه زودتر را میفتیم و میریم. مطمئنم تو کالیفرنی کارمون رو برام میشه توم به چشمای مادر نگاه کرد و گفت چرا که نشه مادر ادامه داد من اعلانایی رو که پخش می‌کردن دیدم نوشته بود که اونجا هم کار زیاده هم مزد تو روزنامه هم خوندم که برای چیدن انگور و پرتقال و هلو یه عالمه کارگر میخوان. تو چیدن هلو خیلی کیف داره. اگه هم نذارم آدم بخوره شاید بشه یه دونه کوچولو و کش رفت. کار کردن زیر درختا و توی سایه کیف داره. همه اینا به نظرم خیلی قشنگه ولی واهمه دارم. اصلا اطمینان ندارم و میترسم که نکنه کلک بشه. گمون می کنم برای اینکه به اونجا برسیم باید دو هزار مایل راه بریم توم به نظر تو دو هزار مایل چقده توم گفت نمیدونم 15 روز اگه هم شانس بیاریم ده روز ولی مادر گوش کن پکر نشو یه چیزی تو زندون یاد گرفتم که میخوام بهت بگم آدم هیچ وقت نباید به اون روزی که آزاد میشه فکر کنه اینه که آدمو دیوونه میکنه باید به فکر امروز بود و بعد به فردا چرا به روزی که هنوز نیومده فکر میکنی؟ مادر گفت چه چاره خوبی و لگن را از آب پر کرد توم کار کردن مادر را نگاه کرد و چشمانش خندید گفت فقط فکرش قشنگه من یکی نمیشناختم که از کالیفرنیا میومد هیچ از این چیزا نمیگفت میگفت, میگفت میوه تو چادرای خیلی کسی زندگی میکنن و زورکی بخورن نمیری گیر میارن تازه وقتی که شانس آدم بگیره و کارش گیر بیاد، مزدشون خیلی کمه. سایهی بچهره مادر گذشت. گفت: او این دروغه. پدرت اعلانی پیدا کرد که توش نوشته بود اونجا ایده زیادی کارگر میخوان. اگه کار نبود که این همه به خودشون زحمت نمیدادن. چاپ این ها کلی خرج داره. مگه عقلشون گرده که دروغ بگن و براش پول خرج کند تام دید نمیتوانند حرفش را به مادر حالی کند. گفت: نمیدونم مادر. و به عقب برگشت صدای پایی شنیده بود پدر بزرگ را دید که با دگمه های شلگارش ور میرفت پدر بزرگ به آنها نزدیک شد و گفت من حرفاتون رو شنیدم چرا نمیذارین پیرا آسوده بخوابم؟ توم دورتر را نگاه کرد کیزی از پشت انبار در حال آمدن به طرف آنها بود مادر گفت دعایی که امروز صبح صبحون من هیچ وقت نشنیده بودم توم گفت آدم عجیبیه گایی حرفایی میزنه که خیلی جالبه. سعی نمیکنه آدمو آدم و بیاره تو راه. مادر گفت ببین چشما چه حالتی داره. خیلی روحانیه. همین که کیزی به نزدیکی آنها رسید مادر خاموش شد. توم به کیزی گفت اینجور که شما گردش میکنین آفتاب زده میشین. کیزی گفت آره ممکنه. و نادان به توم مادر و پدر بزرگ کرد و گفت ببینید من باید به طرف مغرب برم. باید برم. نمیدونم میتونم به شما بیام. همونطور ایستاده ماند و از گفته خود ناراحت بود. مادر توم را نگاه کرد و با نگاه خود از او خواست که حرف بزند. هرچه باشد او همراه کیزی بود و اون باید تصمیم می گرفت. ولی توم لب نگشود. مادر لحظه ای صبر کرد و چون دید توم نمیخواهد چیزی بگوید رو به کیزی کرد. اختیار دارین بودن شما باعث افتخار ماست کیزی آی کشید گفت: هر جوری شده من میرم من اینجا تو هر خونه ویرونی که رفتم دیدم هیچ کس نمونده روی زمین دیگه هیچ کس نیست من دیگه نمیتونم اینجا بمونم باید برم اونجایی که همه رفتن توم گفت خب کن با هم بریم ما هم میخوام بریم مادر از جا برخاست آره ما برای میوه چینی میریم کالیفرنی ولی شما اونجا چیکار میکنین کیزی گفت من دیگه موعظه نمیکنم میخوام تو کهزارها که توی این زمینای سبز کار کنم. پدر بزرگ روی صندوق نشست و به دیوار تکی داد. توم و کیزی هم به دیوار تکی دادند و مادر مشغول آویزان کردن لباس های شسته شده شد. سایه بعد از از خانه دور شد. نزدیک گروه کامیون از شهر بازگشت. در قباری که جاده را فرا گرفته بود، تکان میخورد آل مغرور و جدی روی فرمان خم شده و مجذوب نقش خود بود. پدر و عمو جان مثل رؤسای قبایل در کنار آل نشسته بودند بچه ها پشت کامیون ایستاده و دست به نرده های کنار بارگیر داشتند چهره روتی دوازده ساله و وینفیلد ده ساله چرکین و وحشی بود همگی خسته بودند پدر و امو از همه بیشتر ناراحت بودند زیرا در ازای تمام وسایل مزرعه و اساس اضافی خانه که برای فروش برده بودند فقط هجده دلار به دستشان آمده بود خشمگین و بودند. با خریدار آنقدر چانه زده بودند که دیگر نای حرف زدن نداشتند. آخر سر که مرد گفته بود اساسیشان را به هیچ قیمتی خریدار نیست، تسلیم شدند و هر چی که مرد گفته بود قبول کردند. فقط 18 دلار. آن همه اساس که تقریبا پشت کامیون را پر کرده بودند، فقط 18 دلار. هنگامی که هنوز نیمی از خورشید در بالای افق بود، آل از آخرین تپه بالا راند و بعد پایین آمد و به سوی خانه رفت. درست در لحظه ای که آفتاب غروب می‌کرد، جلوی خانه ایستادند. پدر پایین آمد و در کنار در روی زمین چاَمش را بر مشتش چکی داد و چنبات می‌زد. اموجان به او نزدیک شد و در کنارش نشست. چشmay او هم متفکر بود. پدر بزرگ از خانه بیرون آمد. آن دو را که متفکر دید، با قدم‌های نامرتب به آنها نزدیک شد و در برابرشان ایستاد. این سه نفر هسته خانواده بودند. روشنی غروب کم شد. و اعضای اصلی خانواده یک لحظه ساکت ماندند و به دهان پدر چشم دوختند آنگاه پدر خطاب به همه گزارش خود را داد ما از رو بردیم و فروختیم یارو میدونست که آه در بساطمون نیست و محتاجیم هیچدر دلار بیشتر بهمون نداد مادر منقلب شد اعصابش متشنج و گیافش رو به سرخی رفت ولی سعی کرد آرامش خود را پیش فرزندمش حفظ کند بسر ارشد خانواده که تازه از راه رسیده بود پرسید حالا مجموعاً چقدر پول داریم؟ پدر ارقام روی خاک رسم کرد و گفت 150 دلار. ولی آل میگه باید تایرای کامیون برای رفتن عوض بشه آل تا اسم خودش را شنید جرأت کرد در گفتگو شرکت کند با حرارت گفت این تایرا خیلی کار کرده است ما رو به مقصد تم جلو آمد راست میگه آل این دیگه به درد بخور نیست. آل از حمایت توم سرخ شد و گل انداخت توم فرصت را غنیمت چمورد و گفت میخواستم به همه بگم که کیزی هم با ما میاد. همه ساکت شدند. مادر بزرگ که به جمعشان پیوسته بود گفت خیلی خوبه که اون با ما باشه. به درد میخوره. دعامون میکنه. پدر به چهره همه حاضران نگاه کرد. فهمید که مخالفی در این مورد نیست. گفت خیلی خوب توم. برو پیداش کن بگو اگه با ما میاد خودش حاضر کنه هر زودتر را بیفتیم بهتره توم گفت همین جاست دور نیست بهش میگم خیلی خوب پس دست به کار بشین همه چی را کم کم آماده کنین عمو جان که نمیتوانست مدت زیادی بر خود مسند باشد، با حالتی ناراحت گفت چرا امروز و فردا و وقت میگذرونین را باید یه سرى کرد ما که بالاخره باید حرکت کنیم پس چرا زودتر راه نیافتیم پدربزرگ گفت میدونی چند کیلومتر راهه بالاخره باید یه چیزایی برای خوردن فراهم کنیم پدر با حرارت گفت باید همه چیز چیزو جمع کرد بیاین بچه ها. اندیشه عظیمت یک لحظه خانواده جاد را آرام نمیگذاشت نوا پسر ارشد خانواده مأمور آماده کردن غذای توی راه شد بقیه آنچه را که میبایست همراه ببرند تکه تکه برداشتند و جایی کود کردند تا بعد سر فرصت آنها را بار کنند روزا دختر خانواده همه دباس ها را جمع کرد و در بخچه ها پیچید. مادر بچه ها را خواباند تا برای سفری طولانی آماده شوند. بیرون پدر و آل کامیون را آماده حرکت می توم اسباب و اساسی را تکه تکه می‌آورد و بار کامیون میکرد. بعد آنها را می‌برد برد بارگیر طوری می‌چید کنگام که انگام و اتراق در دسترس باشند. وقیه جامدان ها، گونه محتوی ظروف آشپزخانه، جعبه قاشق ها و بشقاب‌ها را آوردند و یکی یکی به دست توم دادند. توم آنقدر خسته بود که نمی‌توانه صرفی بزند، فقط کار میکرد. بالاخره چیدن بارهای ضروری به پایان رسید. آل به کمک توم آمد و پرزنت کهنهی بزرگی را روی بارها کشیدند. آل به فاصله دو پا از لبه کامیون، تمابی را از سوراخ‌های دو طرف گذراند و دوسر سر آن را گره زد. همه چیز که آماده برای رفتن شد توم و آل مثل بقیه رفتند تا کمی استراحت کنند و چرتی بزنند هنوز پلکایشان گرم نشده بود که روشنایی بامدادی دم به دم رنگ از چهره فانوس فانوسها میبرد توم تکانی خورد و کرختی از تنش ریخت با صدای بلندی گفت خدایا الان آفتاب میزنه دیگه باید را بیفتیم. پدر بزرگ که بیدار بود میغورید و از جابجا جا شدن ناراحت بود مادر بیدار بود و بچه ها را آماده میکرد پدر تصمیم قطعی برای رفتن را اعلام کرد و همه فهمیدند که باید همان اول وقت حرکت کنند. پدر اول از همه پدر بزرگ را بلند کرد و برد روی بارهای پشت کامیون در جای مناسبی خواباند به زنش هم گفت تو به مادر بزرگ فعلا یه مقدار راه جلو پیش آل بشینین به نوبت جا عوض می کنیم ولی از خوردن صبحانه مختصر گی آماده رفتن شدند همه جای خانه را پدر نگاه کرد. بجز چیزهای فرسوده و کهنه که به دردور نبودند همه چیز جمع شده بود. اموجان به همه جا سرک کشید و خیالش راحت شد. مادر و مادربزرگ آرام آرام رفتند جلو، بقل راننده نشستند. آل مغرورانه پشت فرمان قرار گرفت و با اطمینان آماده روشن کردن کامیون شد. کینی، شوهر روزاشران، نوآ، پدر، امو و بچه ها، روتی و وینفیلد، تومجاد و کیزی همگی بالای کامیون روی جامدان ها و صندوق ها جا گرفتند آل پشت فرمان جابجا جا شد ماشین را رو روشن کرد گاز داد و موتور قرید بلافاصله نفیر را برخواست و دود آبی رنگی از عقب کامیون به هوا رفت آل زد دنده یک کامیون از جای خود کنده شد و به دشواری از مقابل خانه گذشت سپس آل انداخت توی دنده دو از تپه كوتایی گذشتند و غباری سرخ رنگ به دنبالشان برخاست همه کسانی که بالای کامیون بودند سرشان را برگرداندند. خانه، انبار و دود رقیقی را که هنوز از دودکش خانه برمیخواست دیدند. پنجره‌ها را دیدند که از تابش نخستین اشعه خورشید میدرخشید مولی را دیدند که تنها در کنار دیواری ایستاده و با چشم آنها را دنبال می‌کرد. کامیون آهسته در گرد و غبار به سوی جاده بزرگ به سوی مغرب پیش می‌رفت. آفتاب خیره کننده بود. جلوتر در کنار جاده جایگاه کوچکی برای سوختگیری بود آل کامیون را به آنجا و درست مقابل لوله نگاه داشت مردی با چهره سرخ روی صندلی نشسته بود آل گفت پولش میکنی بابا مرد گفت پول دارین؟ پس چی که داریم؟ خیال کردی با گده ها سرکار داریم؟ فراریان گاهی در اتومبیل‌های منفرد و زمانی با کاروان های کوچک و بعضی هم در کامیون‌های بزرگ توی جاده 66 میلولیدند از صبح تا شام آهسته و آرام روی آسفالت میرندند و شبها در کنار آبی لنگر میانداختند مردانی که کامیونها و های پربار را میرندند مسترب و دل نگاهشان به جلو بود که کی به جایی برای استراحت میرسند خسته بودند و تشنه و گرسنه. اگر قطعه خراب شود چه آه مجبورن چادر بزنند و یکی پیاده به شهر برود و یدکی بخرد. با کدام پول؟ آزوغه و خاربار چه دارند؟ ببین این ماشین ورازاره که تنگی نفس داره با همه ی عواست مواظبت کن. یه تغییر صدا، یه تغییر حرکت، یه بی احتیاطی باعث میشه که یه هفته اینجا بمونیم. بعضی صدا شنیده نمیشه یعنی احساس نمیشه. شاید یکی از شما خراب شده. وای خدایا. اگه یاتاقان خراب شده باشه چی؟ پول مثل برق میره. چرا موتور امروز اینقدر ام داغ شده؟ راک سربالایی نیست. باید ببینیم. ای وای تسمه پروانه است که پاره شده. بگیر. با این یه تیکه تناب یه تسمه درست کن. طولش اندازه بگیر. من دو سرش رو گره میزنم. حالا یواش یواش برو تا به شهر برسیم. کاش بتونیم بیاد درد سر به کالیفرنیا برسیم به مملکت پرتغال‌ها برسیم کاش بتونیم اما معلوم نیست چی پیش بیاد کم راهی نیست شاید یه تایر لازم داشته باشیم وای پناه بر خدا یه تایر کنور اونقدر گرون میگن که آدم دیوونه میشه زود دستتون رو میخونن میفهمن که شما نمیتونید معطل بمونین و مجبورین حرکت کنین اون وقت قیمت ها بالا میره و میگن قیمتش همینه میخوای ببر؟ نمیخوای بزرگ باشه. دویست و پنجاه هزار نفر روی جاده روان بودند. پنجاه هزار ماشین گرازه و شکسته در طول راه دود میکردند. عبو در سراسر جاده در جا مانده بودند. نگاه کن چی به سرشون اومده؟ اینا برای چی موندن؟ سرنشیناشون کجا رفتن؟ آنها که از حراسی که پشت سر به جان آده بودند میگریختند. پشت سر آنها بر سر چه آمده بود؟ معلوم هست. درهای خانه های خالی از وزش باد به هم میخورد و صدا میکرد دسته های ویلگردان از دعات نزدیک میرسیدند شیشه های درها را میکندند و در جستجوی گنج بنجل های را به هم میریختند نخستین شب همان دم که اهالی رفتند گربه ها از شکار روزانه بازگشتند و دور ایوان میومیو میو کردند و چون هیچ کس بیرون نیامد از درهای باز تو رفتند، و از اتاقهای خالی گذشتند سپس به کهیزارها بازگشتند و از آن پس مثل گربه های وحشی شبها موشای صحرایی را شکار کردند و روزها در چاله ها و گودال ها خفتند شب که معمولاً از ترس روشنایی بیرون خانه ها به درون آمدند و در اتاقهای خالی پرواز کردند چیزی نگذشت که انگام روز در گوشه های تاریک اتاقها خفاش‌ها مسکن گرفتند. بارهاشان را جمع کردند و به تیرهای سقف آویزان شدند. خانه های خالی از بوی فضله جانوران پر شد. موشها هم سر رسیدند و دانهای گندم را در گوشه اتاق‌ها، صندوقها و در کشوهای آشپزخانه انبار کردند. سمورها برای شکار موش‌ها آمدند. جوغدهای قهوه‌ای رنگ هم وارد شدند و ولوله‌کنان بیرون رفتند. بعد رگبار مختصری برید روی پله و جلو درها علف رویید خانه‌ها متروک ماند و خانه متروک خیلی زود خراب می شود روی تخته و دور میخوای زنگ زده شکاف برداشت کف اتاقها از گند خاکی پوشیده شد که فقط موشها سنجابها و گربه‌ها بر آن اثر میگذاشتند یک شب باد تیری را از سقف جدا کرد و بر زمین انداخت، باد تری وزید، از سوراخی که تیر به جان بود تو دوید و سه تیر دیگر را از جا کند تونداد سوم ده تیر را پایین انداخت و به این ترتیب خانه رو به ویرانی رفت آفتاب سوزان ظهر از ها گذشت و بر کف اتاق دایره نورانی کشید گربه های وحشی شب از کیش می آمدند بیان که بر آستانه در بی ایستند و میو میو کنند به درون اتاق می خزیدند. روی زمین سر میخوردند و در اتاق به شکار جانوران کوچکتر می پرداختند. در شبهای طولانی درها به هم میخورد و صدا میکرد و پرداهای پار ای که به درد بخور نبود و دز آنها را نبرده بودند در باد به هم میپیچیدند و پارهتر میشدند. دورتر از آنجا در شست و شش راه بزرگ مهاجرتها مردمانی بیشمار با مختصر اساسی که برداشته بودند، سرگردان و خسته راه میپیمودند. روزها و روزها در راه بودند، از بیابانها و کوهها میگذشتند. شاهراه شست و شش، راه فراریان، راه کسانی بود که از شنها و زمینهای خراب شده، از گررش ترکتورها، از مالکیتهای برباد رفته میگریختند. اده از راه های مجاور، از راههایی که گاری ها پدید میآوردند، از کورهره که همه به جاده 66 میپیوستند خود را به انبوه مهاجرت کنندگان میرساندند قاطی جماعت گرسونه رونده به سوی کالیفرنیا روان میشدند. در طول شهرهای 66 کلارکسویل، اوزارت، وامبن و فورت اسمیت قرار گرفته و این پایان راه آرکانزاس است. اینها راههایی است که به سوی اوکلهاماسیتی می روند. شماره 66 از تولسا پایین میآید، به شماره 270 که از مکالستر بالا می می‌رسد و به شماره 81 که از ویچی تا تا جنوب و از انید تا شمال کشیده شده است می خورد. شاهره 66 از اکلاهاما که بیرون میآید از ایل و کلینتون میگذرد و به سوی مغرب می روید. هیدرو و الکسیتی را پشت سر میگذارد و می‌رسد به تکزولا که پایان راه اکلاهاما است. 66 به سوی تگزاس هم می روید. از شامروک مکلین کونوی آماریلو ویلدورادو و ویگا میگذرد آنگاه به بویز میرسد از بویز که گذشت ایالت تگزاس به پایان میرسد پس از توکوماکاری و از سانتاروزا به کوهستانهای نیومکسیکن میپیچد به سوی آلبوکرک میرسد و از آنجا به راه سانتافل میپیوندد سپس از شیب طولانی ریو تا لوسلوناس پایین میخزد و از نو به سوی مغرب تا گالپ پیش میرود گالوپ مرز نیومکزیکوست از این پس کوها شروع میشود کوهای هولبروک، وینسلو و فلاگستاف به زیر غلال مرتفع آریزونا صف کشیدند سپس دشت وسیعی که چون تیغه پولادین موج میزند گسترده است پس از آشفورک و کینگمن کوههای سنگی و پرسخرهی وجود دارد که آب را از آنجا میگذرانند و سپس میفروشند در پایان رشتهکوههایی که در زیر آفتاب آریزونا تغییر رنگ داده و خرد شدهاند کلرادو با نیهای سبز کنارهای رودهایش قرار گرفته است کلرادو پایان سرزمین آریزونا است. از اینجا درست در آن سوی رودخانه ایالت کالیفرنیا با شهر کوچک و زیبایش آغاز می شود. نیدس در راستای رودخانه است ولی رودخانه از کنارش نمیگذرد در پایین ها در زیبا، باقای میوه، تاکستان ها و خانه های کوچک به چشم میخورد و کمی دورتر شهری نمایان است. آها خدای من، بالاخره سختی ها دارد به پایان میرسد. اما خیال کردین، مگر مفتش های سرحد کالیفرنی چیزی به گشتون نخورده؟ نگرتون تون میدارن، برتون بخت بهتون میگن به می اگه نمیتونین زمین بخرین، راهتون رو بگیرین و برگردین پروانه رانندگی دارین؟ بهتون میگم بده ببینم اون وقت اونو میگیره و پارش میکنه بعد بهتون میگه بی پروانه از اینجا نمیشه گذشت آخه ما توی یه مملکت آزاد زندگی میکنیم خیلی خوب سعی کنین آزادی رو به دست بیارین همونطور که یکی دیگه هم میگفت آزادی تو بستگی به پولی داره که برای خریدش میدی تو کالیفرنیا موزنا بالا رفته. نرو تو اعلانا دیدی زکی من خودم با این چشام دیدم مردمی رو که برمیگشتن و شما خوش باورا رو دست می‌انداختن آل پشت فرمان نشسته بود چهرش مجذوب کارش بود با تمام بدنش به صداهای ماشین گوش میداد و چشمای مستربش کیلومتر شمار را می‌پایید دیگر چیزی نمانده بود ولی صدای ماشین در آمده بود هر عصب آل می‌کوشید که نقاط ضعف تق تق ها ریج و خشخش ها این علائم از کار ماشین را کشف کند او روح کامیون بود مادر بزرگ در کنارش چرت میزد و مثل توله سگی مینالید چشمایش را باز می کرد تا جاده را ببیند سپس از نو خوفت. مادر کنار مادر بزرگ نشسته آرنجش را از پنجره بیرون کرده بود پوستش از تابش آفتاب زننده سوخته بود نگاهش بیرمق بود و نه جاده میدید و نه که کهزارها را بقیه پشت کامیون کنار بارها جا خوش کرده بودند آل گفت موتور خیلی صدا میکنه اگه همین همینطوری با این همه بار از تپوک و تلا بالا بریم خدا میدونه چی پیش میاد از اینجا تا کالیفرنی چیزی نمونده ولی نفس ماشین گرفته شده باید یه مقداری از بار و بنه رو دور بریزیم حتی این عالی جناب کیزی رو اصلا بی خود به خودمون رو مادر گفت نه، اون شاید به دردمون بخوره. هنوز حرفش تمام نشده بود که ناگان مادر بزرگ نالید و به آل گفت نگه دارد. آل نگه داشت. مادر، مادر بزرگ را به سختی پایین برد و کنار جاده گذاشت تا چنبتمه بیزند. بقیه هم از فرصت استفاده کردند و پایین آمدند. توم، کیزی، پدر، نوها، اموجان بچه ها، روتی و وینفیلد و کینی و زنش روزاشرون. فقط پدر بزرگ همونجا کنار بارها ماند. نوها اموجان و کیزی چشم گرداندند و تا دیدند پدر بزرگ پایین نیامده شتافتند که به او کمک کنند. پدر بزرگ پشتش خمیده و چشمانش خیره مانده بود. نوها پرسید پدر بزرگ ناخوشی. پدر بزرگ با صدای ضعیفی گفت بهتره که تموم کنن. حالم خراب خرابه و ناگان به گریه افتاد. مادر با شتاب به سوگه او آمد و در آغوشش گرفت. همگی کمک کردند و پیرمرد را کناری بردند. امودجان جان گفت من هیچ وقت ناییدم اینجوری زارزار زار گریه کنه. ناگان پدر بزرگ مثل اینکه ضربه شدیدی به او خورده باشد از جا پرید. کیزی چهره پیرمرد را نگاه کرد و دید که آرام آرام بنفش می شود. فک او را از هم گشود انگوشتا را در گلویش فرو برد و زبانش را به دست گرفت همان وقت که زبان پیر مردم را می کشید، صدای خورخوری به گوش رسید و صدای نفسی مثل هقیق هق شنیده شد کیزی چوبی از روی زمین برداشت آن را روی زبان پیرمرد گذاشت و فشار داد از نو نفس بالا آمد نفسی که مثل سکسکه بود و با خورخور قطع می شد آه طولانی و فشرده از دهان پیرمرد بیرون آمد و سپس نفسی سود زنان پایین رفت. دقایقی بعد تنفس پیرمرد به کلی قطع شد. کیزی چشمای او را نگاه کرد. چشمایش روشن، درشت و نافذ بود و فروق ساده خیردمندانهی در آنها دیده میشد. شد. کامیون ها و زمین را به آرامی می لرزندند. خانواده جاد، به جمع واهدی تبدیل شد و دور پدر بزرگ حلقه زد. مادر بزرگ را بردن توی کامیون. پدر روی زمین چنبت نزد و امو کنار او جای گرفت. مادر نزدیک آنها ایستاده بود و به توم، نوا، آل و کیزی که بالای سر پیرمرد جمع بودند نگاه می کرد. کمی دورتر ایستاده بودند و زل زده بودند به پدر بزرگ. کنی و روزاشاران با هم حرف می زدن. پدر گفت: « حالا چیکار باید بکنیم؟ جاده خلوت بود و گهگاه اتومبیلی یا کامیونی که پر از بار و آدم بود رد میشد. همه مردم در فکر نجات خود بودند کسی به کسی کار نداشت. هرکس میخواست زودتر خود را از آن مخمسه برآاند و به کالیفرنیا یا یک جایی که کار داشته باشند و مزد بدهند برساند. خانواده جاد نمی نمیدانست با پدر بزرگ باید چیکار کند؟ مدتی که گذشت پدر و عمو جان اولین کسانی بودند که فهمیدند نفس پدر بزرگ دیگر بالا نمی آید و تمام کرده است. رفتارشان به همه فهماند که چه اتفاقی افتاده است؟ شیون و زاری خانواده بلند شد. مردها جسد پدر بزرگ را به دوش گرفتند و به دشت کنار جاده بردند. گوری کندند و او را آرام در گور جا دادند پدر در گودی گور پرید، جسد را بغل کرد و آن را آرام و ملایم ته گور خواباند بعد دستش را گرفتند و بالا آمد. پسرها خاک را درون گور ریختند و همین که همه به موجب حقی که داشتند وظیفه خیش را انجام دادند، زنها و بچه ها به توده بالا آمده خاک یورش بردند و گریه وزاری کردند. کیزی دعایی خواند و همه نشستند و به گور چشم دوختند. دلشان نمی پدر بزرگ را تنها بگذارند. ولی چاره‌ای نبود. باید می‌رفتند یک ساعت بعد از به خاک سپردن پدر بزرگ خانواده جاد به آهستگی راهش را به سوی غرب دنبال می کرد. از ها بالا می خزید. هرمها و گله های سلسله جبال نیومکسیکو را پشت سر می‌گذاشت به سرزمین فلات های بلند آریزونا راه یافت و پس از عبور از های خطرناک به کویری پردامنه رسید. توم گفت، بازم کبیر، اول باید خودمونو به آب برسونیم آبمون تمومه، جاده به موازات کبیر میدوید و جلو می‌رفت همانطور رفتند تا کبیر به پایان رسید و ای نمایان شد، آنها نیهای سبزی را دیدند که در جریان آب به کندی خموراست می شدند، همانجا ایستادند و همگی گی پایین آمدند، نوها گفت، توم، من دیگه از اینجا جلوتر نمیام مگه دیوونه شدی آره دیوونه شدم همینجا میمونم ماهی میگیرم کنار یه همچین رودخونهٔ خوبی هیچ وقت از گرسنگی نمیمیرم خونواده رو چی کار میکنی مادر و کاری از دستم بر نمیاد. میدونم دلشون با حال من میسوزه اما ای ندارم از اینجا جلوتر نمیام برو به همه بگو یه دقیقه گوش بده در این حیث و پدر تم صدا کرد توم به نوعا گفت دیگه باید راه بیفتیم. نوا قبول نکرد و ماند توم او را تنها گذاشت خانواده از ماشین باری بالا رفت و کامیون توی جاده بزرگ به راه افتاد و هایی که به سوی مغرب میرفتند از آنها جلو میزدند. این بار توم کامیون را میراند. هنوز راهی نرفته بود که فهمید غیر از نوعا کنی شوهر رزاشارون هم رفته است حتی کیزی هم آنها را ترک گفته بود اما کسی به این چیزها فکر میکرد. کمی دیگر که رفتند این بار مادر فریاد زد نگه دارند. توم به سرعت زد روی ترمز. صدای مادر طور دیگری بود. همه دورش جمع شدند و مادر بزرگ را دیدند که سر بر شانه مادر گذاشته و به خواب رفته. بالاخره مادر همه چیز را گفت. مادر بزرگتون. کاش میتونستم حالا بهتون نگم. ولی باید بدونید. چیه مادر؟ حال مادر بزرگ خطرناکه. مادر چشمایش را بالا گرفت و مالید. مادر بزرگ مرده. کی؟ تو راه من بهتون نگفتم که بتونین از این جاده خطرناک بگذارین. اما دیگه تا قد نهی هم درد گرفته. پدر آه امیغی کشید. گفت. هیچ کار دیگه نمیشه کرد. باید همینجا. مادر گفت. میدونم که چقدر دلش میخواست خوب خاکش كنند همش جوراه میگفت دیگه وقت رفتنه همه کمک کردند و مادر بزرگ را پایین گذاشتند و بعد از گریه اوزاری او را مثل پدر بزرگ در گور نهادند و راه افتادند اینبار باز هم آل پشت فرمان نشست کامیون با احتیاط از پیچ تپهای گذشت و روی جاده افتاد آل توی جاده تند میراند و وقتی به هومهٔ شهر رسیدند تاریکی همه جا پن شده بود. جلوتر که رفتند شهری کوچک دیدند که باغهای میوش نمایان بود. توم گفت خدا کنه پیدا کردن کار آسون باشه. مادر پرسید کالیفرنی اینجاست؟ اینجا که نه. این تازه اولشه. کمی دورتر راه را بسته بودند. تعدادی موتورسیکلت کنار جاده ردیف شده بود. توم گفت بایدی اتفاقی افتاده باشه همین که نزدیک شدند مردی از پلیسای محلی که چکمه به پا داشت و کلاه لبه پهنی بر سر نهاده بود از پس های ایستاده ظاهر شد دستش را بالا آورد و آل کامیون را نگه داشت پلیس بیقیدانه به در کامیون نزدیک شد و پرسید کجا میرین آل گفت یکی به ما گفت اینجا برای میوه چینی کارگر میخوان پلیس گفت پس از این قرار میخوان کار کنین. توم گفت معلومه که میخوان کار کنین. خیلی خوب. دنبال اون ماشینا را میبرند میبرنتون سر کار. شش اتومبیل جلویی با اشاره پلیس را افتادند و آل هم پشت سرشان رفت. چیزی نگذشت که خودشان را جلوی اردوگاه بونگای کشاورزی یافتند. ها و کامیونهایی که دنبال کار بودند، به ردیف ایستاده بودند و مأموری که از را رسیده بود، یکی یکی با همه صحبت کرد. شلواری زرد رنگ پیراهن آبی و کراواتی سیاه داشت عینکی پنسیب با ذهن ننگرگون زده بود و چشمش از پس شیشه های زخیم عینک سرخ و اشکالود مینمود. بالاخره آمد به سمت سمتتون سرش را جلو آورد تا او را بهتر ببیند گفت من اومدم اسمتون ثبت کنم چند نفرتون کار میکنن؟ چهار نفر مرد چیزی نوشت؟ تو پرسید کارش سخته؟ نه؟ هلوچینیه اندازه کار بهتون موز میدن برای هر جعبه پنج سنت آل پرسید ای نداره که بچه ها به ما کمک کنن نه چما نداره به شدی که دقت کنن مادر همونطور از توی کامیون گوش میداد پرسید آقا موز رو زود میدن نه به این زودی که پول نمیدن ولی بهتون کاغذی میدن که میتونین هرچی بخواین از دوکم بگیرید مرد از آنها دور شد و به طرف ماشین بعدی رفت تومجاد رو به خانوادهاش گفت یا لازود باشین من دیگه امشب باید این شکم لامسب و با نون و گوشت پر کنم داد کجا باید داریم آقا مرد گفت صبر کنین وقتی من رفتم دنبالم بیاین مرد با همهٔ آنهایی که برای کار آمده بودند صحبت کرد بعد را افتاد به طرف اردوگاه کشاورزی توم پدر آل و اموجان پشت سر او طول خیابان خاکی را پیمودند و به باغ میوه و درختای حلو رسیدند معموری محل کار را نشانشان داد گفت از فردا صبح کار شروع می و اتاقکی در اختیارشان گذاشت بالاخره لخره خانواده جاد مستقر شدند خستگی آنها را خیلی زود به خواب برد فردا صبح تم پدر آل و اموجان سر کار رفتند سراسر صبح یک ریز کار کردند وسط روز روتی و وینفیلد هم به کمکشان آمدند. پدر به آنها سفارش کرد با دقت کار کنند تا میوه له نشود. کاغذی را هم که داده بودند مادر برداش رفت به اندازه یک دلار جنس گرفت. بعد او هم به کمک مردها آمد و شروع کرد به چیدن میوه. سفت را بر زمین گذاشت. میوه را میچید و توی آن میگذاشت. کمی که گذشت کمرش درد گرفت. پدر گفت تو برو غذا درست کن. ما خودمون خودم بچه ها هم ببر. مادر به ناچار کار را رها کرد و با بچه ها به اتاقک رفت. شب کامل پهند شده بود که مردها از سر کار آمدند پاهای سنگینشان اتاقک را می لرزند. فدر نالید هیچ فکر نمی که اگه دستم را دراز کنم و حلو بشینم کمرم درد می توم گفت تا دو سه روز همین بعدش عادت می کنی. مادر صفره ی انداخت و چیزی خوردند. بعد از شام، توم از جا بلند شد. من میخوام برم بیرون ببینم چرا اون همه آدم جلو دفتر اردوگا جمع شده بودن. میخوام از این ماجرا سر در بیارم. شما میایی؟ پدر جلوش را گرفت. نه را توم. ای من اینه که بی سر و صدا کارمونو بکنیم و فکرهای دیگر کنار بذاریم. نمیشه، باید برم. آل، تو میایی؟ آل گفت، من اونجا نمیام. میخوام برم یک گشتی بزنم توم ادامه داد خیلی خوب اموجانم که حتما نمیاد پس باد خودم تک و تنها برم از صبح تا حالا اون همه آدم اونجا جمع شدن که چی باید برم سر دربیارم ببینم چه خبره پدر راضی نبود گفت با این همه پاسپون که اینجا هست من هیچ نمیخوام از چیزی سر در بیارم تو هم به مادرت نگو کجا میری وگرنه جوش میزنه و همه رو ناراحت میکنه توم سر تکان داد و مسمم بیرون رفت توم در تاریکی شب راه افتاد و جلو رفت تا دفتر اردوگاه خیلی راه بود تقریبا نصف آن مقدار که تا با رفته بودند وسط راه دم چادری مردی روی جعبهای نشسته بود داد کی هستی توم جاد گفت سلام هیچی رهگذر کسی را اینجا نه بهتون گفتم که رهگذرم سری از چادر بیرون آمد صدا زد چه خبره تومجات ناگهان فریاد زد کیزی کیزی اینجا چیکار میکنی خدایا کیزی هم گفت چه تصادفی تومجات بیا تو بیا تو مردی که جلوی چایدور نشسته بود از کیزی پرسید میشناسیش میشناسمش رفیق همه سالها هم دیگر میشناسیم ما با هم میرفتیم مغرب و سترا از هم جدا شدیم یعنی من جدا شدم دستش را بالا آورد و گفت بیا تو بیا توم تومجاد تنجم انداخت و او را به درون چادر کشید درون چادر سه مرد گرداغه دفانوسی روی زمین نشسته بودند و بدگمان توم را نگاه میکردند یکی از آنها که سی هست بود با توم دست داد گفت درباره همین جوانت به ما حرف میزدی کیزی؟ کیزی کنار تومجاد نشست آره همینه عجب تصادفی؟ و رو به توم گفت خانواده کجا هستند؟ تو اینجا چیکار کار میکنی؟ هیچی؟ توی را شنیدیم اینجا کار هست را افتادیم اومدیم. یه دسته پاسپون جلو گرفتن و ما رو به اینجا آوردم و, و گفتم بهتون کار میدیم. امروز رفتیم سر کار و تا غروب وو چیدیم. ولی من خیلی یادو دیدم که جلوی دفتر اردوگاه جمع شده بودم و داد و فریاد میکردم نمیدونم چه خبر بود. از هر که پرسیدم جواب نداد امشب اومدم بیرون تا بگردم و بفهمم واسه چی اونجا شده بودم به چشمان کیزی خیره شد و پرسید ولی تو تو چطور به اینجا اومدی کیزی گفت ماجرای من مفصله میدونی که نمیخواستم مزاحم شما باشم رفتم دنبال کار خودم و بلاخره میبینی که زودتر از شما به اینجا رسیدم راستی خواهرت چطوره رزاشارون و شوهرش کنی؟ کنی که دنبال نوعا رفت اما خواهرم روزا مثل گاو گنده شده. شاید میمندم که دو بلو بزند. با راستش شکمشو نگه می‌داره و راه میره. خب آخرش به من نگفتم اینجا چیکار می‌کنی کیزی؟ مرد سی چرده به جای کیزی جواب داد. هیچی. ما اعتصاب کردیم. چرا؟ به خاطر چی؟ ببین ما اینجا اومدیم کار کنیم. بهم گفتن که پنج سنت مز میدن به شما هم همینو گفتن؟ تمجاد گفت آره پنج سنت البته زیاد نیست ولی شکم سیر میشه مرد سختکان داد به کیزی و بقیه نگاه انداخت و بعد رو به تمجاد کرد به مام گفتن پنج سنت میدیم میدونی ادامون زیاد بود همین که کارو کردیم بهمون خبر دادن که فقط دو سنتونی موز میدن میدونی که با این مز شکم یه نفرم سیر نمیشه چه برسه به این که آدم زن و باید داشته باشه؟ ما هم گفتیم کار نمیکنیم اون وقت هممون رو به اوردن در بیرون کردن و همه پلیسری در سرره. حالا به شما گفتم پنجنت میدن که جایی ماها رو بگیرین اما وقتی احصاب ما رو بشکنن و دستگیری و خرشون از پل بگذره خیان میتونی بازم به شما پنج سنت میدم تجات به فکر فرو دوان از جبی نمیدونم حالا که پنج دادم کیزی هم گشود. گوش کن کنتم، ما رو دنبال کردن و با وحشیگری حسابمون رسیدن. دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم. اون سر و که شنیدی برای طرفداری از ما بود. ولی ما دو روزه که هیچی نخوردیم اینجا توی چادر قایم شدیم تا ببینیم چیکار باید کرد. وقتی رفته پیش خون بهشون بگو که ما رو دارن از گشنگی میکشن. به بقیه هم بگو. دم خیلی و از راه رسیدن از توی جاده به اینجا آوردنشون. بهشون بگو که به م اینکه پاس بون سرکوب کنن مزد اون هم تا دوامتونین پای میاد مطمئن باش تمجاد قول داد و گفت من بهشون میگم ولی میدونین مردم با هم متحد نیستند. حتی بهشون سلام که میکنی سریش بلند نمیکنن جواب بدن ولی تو سعکن بهشون حالی کنی. به مض اینکه ما از اینجا بریم مزدشون شما رو میدونی دوستمتونیم یعنی چی؟ توم سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت. بعد گفت باشه من سعی دیگر دیگرانو متقاعد کنم. کیزی پرسید خب مادر چطوره؟ پدرت بقیه؟ هیچی خوبم. توم حسنه نگرد حاله بقیه رو بگوید. فقط گفت فکر نکنم پدرم قبول کنه. من خوب می‌شناسم. می ایست. کاری به این کارا نداره. آره به نظرم حق با توه تا ضربت محکمی تو که نخوره حالیش نمیشه تمجاد در حال خداحافظی با کیزی و دوستانش بود که ناگهان مردی که جلوی شادر نشسته بود و که میداد به درون آمد و گفت کیزی چراق خموش کن انگار خبرهایی هست کیزی سری فتینه چراغ رو پایین کشید همه کورمال کورمال از چادر بیرون رفتند تا ببینند چه خبره صدای غورباقاها با جیرجیر تند و جیر ها با صدای ریز در اعماق خاموشی تنیم میداخت. ولی در ورای زمین آوای دیگری به گوش میرسید صدای خفه پاها به روی جاده صدای غلطیدن کلوخی بر دامنهٔ خاکریزها و خشخش ملایمی در میان ها. کیزی پرسید توم تو صدایی میشنوی آره میشنوم صدایی میشنوم که می‌کنم میکنم ادهی از همه طرف پیش میان. بهتر از اینجا بریم. مرد شروکیده و سیهت گفت. بریم زیر پل. همه آرام و بی صدا پیش رفتند. به پل که رسیدند خم شدند و پاهایشان در آب جویبار زیر پل لغزید. صدای نفسهاشان در طاق پل تنین میانده. نانان صدایی آمد. این ها نورانی چراغ قفه برانها پرتو افکند. در میانشان گرفت و کورشان کرد یکی گفت تکون نخورین صدا ها از تیرگی بیرون می آمد خودشونم رهبرهای کیزی آرام به تومجاد گفت بدبختی منو رهبر اعتصاب بدونم چون خیلی حرف میزنم یکی گفت حرف نزن درنت خورد میکنم سرخ کثیف مدی کوتاه تنومند و خپله در روشنایی پیش آمد چماغی به دست داشت کیزی گفت هیچ میدونین دارین چیکار میکنین؟ شما به گشنموندن بچه های کوچیک کمک میکنین خپله چماغش را بالا آبد کیزی کوچید ضربت را رد کند اما شما سنگین با صدای گنگ بر فرقش نواخته شد و کیزی در تیدگی به پهلو افتاد شاهای نورانی پایین آمد روی زمین را جست و فرق شکافتهی کیزی را یافت تومجاد خاموش اما چابوکانه جهست با یک حرکت چماغ را از دست خپله گرفت، آن را بالا برد و بر سر او فرود آمد. هنگامی که ایکل تمام همد مرد به زمین افتاد، توم سه ضربت دیگر بر سرش کبید. اما وقتی روی ایکل مرد خم شد، ناگاه ضربتی سمگین بر سرش فرود آمد. این ضربت اثر لرزش برق را داشت. اما طاقت آورد به دوید. با کمر خمیده در کنار پل و جویبار میدوید و صدای پاهایی را که در آب جویبار به دنبالش میآمدند میشنید با تمام توان پیچید و از راهی دیگر در میان بوتههای خار در انبوه درختان فرو رفت گمش کردند نتوانستند پیدایش کنند نشست و به صورت کرختش دست کشید بینیش شکسته بود و رشته خونی تا چانهاش روان بود با شکم بر روی زمین دراز کشید تا هواسش کاملا جا بیاید وقتی حالش جا آمد برخواست و آرام آرام به طرف اطاقکی که خانهشان شده بود برا صبح همه بیدار شدند زیر لهافهایشان موشای کوچکی میلولیدند و جیجیر میکردند مادر به تندی نگاهی به تم انداخت یک لحظه خیره ماند و سپس با شتاب به او نزدیک شد صورت تم برآمده و متورن بود و بشر سیاهی از خون روی چانه و لبهایش دلمه بسته بود آهسته گفت توم چی شده؟ هیچی مادر توی دعوانی چی شده توم راستشو بگو باور کن تقصیر من نبود اتفاق افتاده توم بچه ها و شتاب زده پیش آمدند مادر داد زد برین, برین صورتتون رو بشورین صابون نداریم خب با آب بشوریم برین بچه ها رفتند مادر دوباره پستید توم چی شده؟ توم ناچار لب بشد بهش که چیزی نگینا. خب. آل و بقیه این هم آمدند. آل گفت. دیگه کجا رفتی دعوارا انداختی؟ امون جان داد زد. چی شده حرف بزن؟ پدر ما تو متحیل نگاه میکرد. زیر لب گردید. لعنت برشی تو. چی به سرت اومده؟ توم ماجرار رو تعریف کرد. آخر سر هم گفت. کیزی کشتم. سرش شکاف فرداشته بود. من اونجا بودم نتونستم تا بیارم. یکی رو انداختم مادر نفسش بند آمده بود. پدر با چهرهی منقبض شده و با صدای آهسته پرسید. کشتیش؟ نمیدونم. دیبونه شده بودم. سعی کردم بکشمش. مادر پرسید. تو دیدن؟ نمیدونم. به نظرم دیدن. چرا قوه داشتن؟ دنبالم کردم ولی فرار کردم. مادر برفاز. خیلی خوب. همه برن سر کار اگه از توم پرسیدن بگین مریضه فهمیدین؟ همه سر تکان دادن و رفتند وقتی توم با مادر تنها شد گفت مادر ما بی اون که خودمون بدونیم به کارگرا خیانت کردیم ما اعتساب شکن بودیم حالا اونا رو تارو مار کردن ممکنه از امروز به ما به جای پنج دو سنت و نیم موز مادر سر تکان داد بی به یاد سر شکسته و خنوم کیزی نالید و سرش را در دستایش بناد کرد گفت ریافش از این دور نمیشه خدایا در این لحظه آل به اون نزدیک شد توم رو به او کرد من باید از اینجا برم آل حالا دیگه باسه همتون تون آل گفت باشه اما من هیچ خوشم نمیاد تو بری توم گفت ولی من براتون جز زحمت و در به چیزی ندارم باید برم مادر رو با آل داد زد. چرا نرفتی سر کار؟ زود باش. آل غرغر کنان رفت. روزاشارون آمد بالا سر توم. توم. گفت. قصه نخور خواهر. برات چیر دعیه می کنم. روزاشارون دستی به شکمه برامدهش کشید و بیان که جوابی بدهد آهسته پلکایش رو بست. مادر از آشپزخانه برای توم صبحانه آورد. گفت. بجه جای گیر افتادی. به اینکه برای بنزین پول درآوردیم را میفتیم من نمیذارم تو تنهایی جایی بری تو. آره مادر حق داری باید از اینجا رفت مادر سرش رو برگرداند و چشمهایش به چشمهای گشاد دخترش دخته شد گفت من هرچی از دستم اومد کردم که خونوادم از هم نپاشه وینفیلد اگه کسی نباشه از ش نگهداری کنه چیکار میکنه مثل سگ ولگرد و وحشی میشه. روتی هم همینطور. چون هیچکی که سرشون نمیمونه توم نرو بمونو بالا سر بچه ها باش توم با صدای ای گفت خیلی خوب خیلی خوب نمیرم گریه نکن بس شیطون نمید. روز بعد پدر آل و اموجان بعد از کار به خانه آمدند پدر گفت همونطور که پیش بینی کرده بودیم موزداره کم کردن زیادی کارگر جدید اومده. اینا حاضرم برای یه تیکنون میوه بچینن و مض کم بگیرن. از گشنگی دارم میمیرن. زود راضی میشن. تا میری یه حولو به چینی و بذاری تو جعبه حرو رو دستت میر برای چیدن میوه با هم مسابقه میدن با هم زد و خرد میکنن. من به بازرس گفتم ما نمیتونیم با این موزد کار کنیم. بهم جواب داد خب پس میتونیم بیم پیکارتون. کارگر جدید اومدن و بیشتر نمیخوام. بهش گفتم. این هم وقتی شکمشون سیر بشه دیگه از این نمیشن با این مست کار کنن گفت پیش از اینکه که شکمشون سیر بشه همه میبه ها چیده شده و فروش رفته پدر خاموش شد و به فکر فرو رفت امو جان گفت شیطونای خبیست به نظرم امشب هم منتظره یه ادکارگر جدید هستم همینطور دارم میان پس از لحظه ای پدر رو به توم گفت توم گمونم گفت آره چند دسته پلیس و سرباز فرستادن رو بگردم مادر پرسید حالا چیکار کنیم چی, کنی؟ چی به سر پسرم میاد کسی جواب نداد خودش ناگهان برخواست و گفت ما هممون از اینجا میریم داد زد آل کامیون رو کن ادامه داد من فکر همه چیزی کردم یه دوشک میذاریم تی کامیون توم میره روش دراز میکشه بعد یه دوشک دیگه میذاریم روش بقیه اساسا می رو میزاریم برش دیگه هیچ که حرف نزنه. همینه که میگم. دیگه چاره ای نیست. پدر اعتراض کرد. انگار مرد خونه عقق هر نداده نداره. مادر گفت زود باش آل زود باش. تو هوا تاریک نشده باید بریم. آل برای آماده کردن کامیون بیرون رفت. مادر به بقیه دستوراتی داد و همه مشغول جمعآوری اساسیه شدن. مادر تو شکار تهی بارگیر کامیون جا داد و توم را فرستاد آنجا اس ها را دور و بررش چیدند و همه چیز آماده شد وقتی رفتن نگهبانی پیش آمد پرسید چیکار داریم میری چرا؟ خب دیگه جای دیگه موضوع بیشتری پیشنهاد کردم راستی کجا طرففهوییت ویتپاچ ببینم یکی دیگه همراه شما نبود اون کارگری دورقدم میگی اون زودتر از ما رفت با این مزدا نمی میتونست کار کنه پیش از اینکه ما اینجا برسیم با ما همراه شده بود ولی بهمون کرد و رفت وقتی میرفت صورتش زخمی نبود نه ما چیزی ندیدیم نگهبان قانه شد مانع را برداشت و کامیون بهرا زمین زمینهای مغرب از نخستین های دگرگونی میلرزید کشورهای مغرب مثل اسبهایی که نزدیکی طوفان را احساس کنند مضترب بودند مالکین بزرگ میترسیدند زیرا تغییری را احساس میکردند ولی از پیشبینی ماهیت آن نتوان بودند. یک مرد یک خانواده دیگر از زمینش رامده شد. یک شب خانواده دیگر در کنار جاده چادر زند. خانواده دیگری سر رسید و چادرها برپاشد. دو مرد چنبات زدند و زنها و بچه ها گوش دادند. خیشی پدید آمد. شما که از تحولات بدتون میاد و از انقلاب میترسید این دو مرد از هم جدا کنید. اونا رو نسبت به هم ورز کنید، از هم بترسونید، به هم بدگمان کنید. این نطفه چیزیه که باید از اون بترسید. زیرا دو مرد دیگه به اندازه یکی تنها و سرگردون نیستند. شما نمیتونید این رو بفهمید. زیرا مسئله مالک بودن برای همیشه شما را در من منجمد میکنه و شما را همیشه از ما جدا میکنه. بله، کشورهای مغرب از نزدیکی تحول مستره بستند. احتیاط چیزی است که فهم را به جنبش می آبرند. فهم چیزی است که به سوی عمل می راند. میلیون نفر در کشور جابجا جا می شوند. یک میلیون دیگر صبرشان به پایان می رسد و آماده جنبش می شوند. ده میلیون نفر نخستین نشانه های خشم را احساس می کنند و تراکتورها همچنان زمینهای تخلیه شده را شیار می کند. اتومبیل های مهاجران همچنان در ها می خزد. به شهر میرسد و در جادهای بزرگ به سوی مغرب راه میافتد افراد خانواده گردهم میآمدند و شبها را در گوشهی دورههم میلولیدند چون حس میکردند که از دست رفته و متلاشی شدند چون از جاهایی میآمدند که بینوایی و اندو بران فرمان میراد چون تحغییر و شکست را تحمل کرده بودند پس همگی به جانب جاهای تازه و شگفتی میرفتند تا دوره هم جمع شوند با یکدیگر حرف بزنند و زندگیشان و خوراکیشان را با هم تقسیم کنند. وقتی خانواده در کنار چشم چادر میزد خانواده دیگری هم میامد و همانجا چادر میزد و سپس ذگومه می رسید زیرا دو خانواده آنجا را مناسب دانسته بودند و آنگاه که آفتاب غروب می کرد شاید 20 خانواده و 20 اتومبیل در آنجا گرد می آمدند. از 20 خانواده خانواده واحدی به وجود میآد همه جا و هر گوشه همینطور بود بچه ها بچه های همه می شدند. چون بی قسمت شده بود و پیش می آمد که ناخوشی بچه ای از این بیس خانواده صد نفر را از ناامیدی لبریز میکرد و به خاطر کودکی، به خاطر رنج کودکی، به خاطر تولد کودکی، صد نفر تمام شب زیر چادر خاموش خوش کشم و بامدادی زایمان یک زن دل صد نفر را از خوش رودی می باشد. دیده می شد که تازه دیشب، ترسان و له شده سر رسیده بود بچههایش را میشه گفت تا برای مولود جدید خانواده دیگر هدیه ای بچویید. همه آنها اندک اندک هنگام شادر زدن هنگام برخاستن نشستن، راه رفتن به هم نزدیک میشدند با هم جوش میخورند و میدیدی که کسی از میان پتویی گیتاری بیرون میکشید کوکش میکرد و آوازی که مال همه بود در دل شب تنین مردها آواز می‌خواندند و زنها به آهستگی آهنگ آن را زمزمه میکردند هر شب دنیایی خلق می‌شد. دنیایی کامل با ابراز دوستی ها و دشمنی های نوپدید دنیای کامل با لشها و بزدلهایش با مردان آرام مردان کمرو و خوبش مردان بد و پررویش در آغاز خانوادهها برای تشکیل دنیاهای خود کمرویی می می‌دادند. اما اندک اندک فن تشکیل این دنیا ها را آموختند، برایشان خودمانی شد، راه و رسم زندگیشان شد و بعد کسانی پیدا شدند که برای دیگران حرف میزدند و قانونهایی وضع وزمی کردند. بعد مجموع قوانینی به وجود آمد و به تدریج که این مردم به مغرب نزدیک می شدند، قوانینشان کاملتر و رنگینتر می شد. زیرا تجربه های افراد بیشتر می شد. خانواده ها که باید رعایت کنند می آمختند. زندگی خصوصی در چادر را حق به خاک سپردن گذشته را در تعدلشان حق سخن گفتن، گوش دادن، حق پذیرفتن یا نپذیرفتن، کمک کردن یا کمکی نکردن، حقی که پسر برای خوشامد گفتن دارد و دکتر برای خوشامد شنیدن حق خوراکی برای گرسنه‌ها و برآوردن نیاز نیازمندان. و بدون اینکه کسی کلمه‌ای بگوید، خانواده حس می‌کردند که چه چیز برایشان خطرناک است. و اینها باید برای همیشه از بین برود و چه چیز برایشان خوب است و باید بماند و به تدریج که جمعیت به سوی مغرب میلغزید با قانون میشد. اگر کسی کنار شماده را دست به آب میرسند و یا آب خوردن را می آلود و یا پیش آدم های گرسنه چیزهای خوب و اشتهاانگیز میخورد از قانون سرپیچیده بود. در هر جمعی از مهاجران اگر آقلی حس می کرد که اقلش برای جمع مفید است آن را به کار میزد. ولی یک احمق نمیتوانست توانست خود را در هیچ جمعی جا بزند در ته این شبها یک نوع امنیتی به وجود آمد که به تندی در همه جا گسترده می شود. کسی که چیزی برای خوردن داشت گرسنه ای را هم سیر میکرد. و این دنیا ها شبها درست میشد. شد شبهایی که مهاجران خسته در راهی می و به عده دیگر که چادر زده بودند میپیوستند. اما اما بامداد چادرها برچیده می شد داخل قوار روی کامیون ها بار می میشد و ظرف ها در جای ها جای می گرفت. اندکندک هر فرد خانواده جا و کار ویژه خود را میاندوخت. پیر و جوان هر کدام در ای از اتومبیل و کامیون برای خود جای مخصوص داشت. شبهای گرم و خفه آور وقتی که به اردوی می رسیدند هر کس بدون اینکه در انتظار فرمانی باشد به کار خود می پرداخت. بچه‌ها چوب جمع می کردند و آب می مردها چادرها را می افراشتند. و لخت را پایین می آمدند ها شام درست می کردند وقتی اتومبیلی از ات می رسید و کنار می زد و جواب ها جاری می شد آقا میشه شه شبا اینجا سر کرد؟ البته خیلی هم خوشحال میشیم. شیم مال کجا هستیم؟ مال آخرای آرکانزاس. آرکانزاس یا اونجا هستم تو چادر چهارمی؟ آب اینجا چطوره؟ خوشگوار نیست اما فراونه خیلی ممنون می اتومبیل سنگین و با صدا به نزدیک چادر مورد نظر میرفت رفت می ایستاد و آن وقت سرنشینان خسته و کفته آن پیاده می سپس چادر خودشان را می و آتشی دیگر روشن می شد و کسی شام می پخت. آنها که قبلتر رسیده بودند نزدیک می شدند پرسی می کردند. اسم محلشان را، سرزمینشان را، شهرشان را به هم می دوستها و احیانان اقوام همدیگر را می افتند. اهه مال اکلاهمایی؟ کدوم قسمت؟ چروکی؟ نه بابا همه گمخشای من اونجان آله نمیشنسی؟ وینی رو چی؟ اینا توی چروکی خیلی معروفن آره میشناسم دوستی ها پدید میامند بچه ها با هم دوست میشدند و بازی میکردند دختران جوان هم دیگر رو را میافتند رازهایشان را به هم میگفتند و عشقهای زودگذرشان را برای هم دیگر حکایت میکردند مردها از زمینی که کمپانیها بانکها و تراکتورها از چنگشان درآورده بودند حرف میزدند یکی میگفت شاید مأصیتی کردیم و خودمون خبر نداریم از آینده میگفتند اینکه نمیدونیم چی میشه خدا کنه خوب بشه شما کجا میرین؟ کالیفرنی ما هم همه خیالا داریم ولی هر جا توی راه کار خوب پیدا بشه میمونی بی بیجان چراغ برق در کنار جاده میلحسید در هر تکان کامیون دیگا و ظرفها بر کف کامیون دیوانه دیوانهوار برج برجه, برجه می میکردند رزاشاران آهسته ناله میکرد اموجان پرسید حالت خوب نیست نه جون، حالم خوب نیست من همیشه مریضم دلم میخات جایی بریم که زندگیمون مرتب بشه و دیگه از جامو تکون نخوریم دلم میخواد بریم خونمون و هرگز اینجا نمونیم اگه سر خونه و زندگیمون بودیم کنی منو ول بله نمیکرد بره میموند و بچهمونو به دنیا میاوردیم و زندگی میکردیم امو جان نگاهی به باباتوم انداخت هر دو به فکر فرو رفتند فکر رفتن کنی دامادشان آنها رو میآزرد به جاده چشم روخته بودند و از اینکه نمیدانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است رنج میبردند هوای سرد شب نیش میزد برک های مرده درختان کنار جادر انباشته بود بالای کامیون مادر به نرده های بارگیر پشت داده بود و به بقیه خیره شده بود رو به تم کرد و پرسید حالت خوبه توم؟ صدای خفه توم آزارش میداد جام خیلی تنگه اذیتم میکنه عاقل باش پسر صبر داشته باش میرسیم به یه جایی و بیرون میای آل داره از کدوم طرف میرونه نمیدونم فعلا رفته تو جاده دستش گمونم از همون راهی که اومدیم داره میره نه nah, نه nah, بهش بگین از جاده چپ نره اونجا تو چنگ پلیسا گرفتار میشین با این سر و وزن منو میشناسن و نیگرمو میدارن باشه الان میگم باشه مادر با مشت به پشت اتاقک کامیون گفت کامیون کنار جاده ایستاد آل پیاده شد و از بغل کامیون آمد بالا چیه چی شده آل توم عقیده داره که از راهای فرعی بریم بهتره توم از همان زیر گفت واسه زخمام میگم آل اولین کسی که به ما برسه منو میشناسه تمام پلیسا الان از موضوع باخبر شدم آل گفت خب به نظر تو از کدوم طرف برم نظر خودت چیه؟ من امرید داشتم بریم طرف شمال تا حالا به طرف جنوب میرفتیم آره خوب آل ولی باید از راهای فرعی بریم روتی و وینفیلد با دهان باز به برادرهای بزرگتر خود چشم بودند. مادر ساکت بود و حرفی نمیزد. ولی وقتی آل گفت چطور همینجا چادر بزنیم؟ سر داد و گفت هنوز زود آل. بزار دورتر بشیم بعد. آل قبول کرد. پرید پشت فرمان و دوباره به راه افتاد. مادر زیر لب گرگر کرد وقتی فکر کنم همه جان دنبالمون اصلا ناراحت میشم. دارم بدخور و عصبانی میشم. روتی و وینفیلد یه خندیدند. آل به سمت راست پیچید و در رای سنگفرش فرش پیش رفت نور زرد رنگ کامیون به روی سنگریزه ها می لرزید رفته, رفته درخت های کنار جاده کم و کمتر شدند و کشزار پنبه سراسر کنار جاده را سفید کرده بودند جادها از جاده های مارپیچ حدود گذشتند پرچین های پمبزار را هم پیمودند و در طول ساحل پیشرو روی انبوه بوتها پیش رفتند از پول سمنتی گذشتند و در طرف دیگر جریان آب را دنبال کردند سپس به جاده فرعی پیچیدند که تابلوی ابتدایان آن نصب شده بود و رویش نوشته بودند برای پن چینی کارگر استخدام میشود آل از سرعت کامیون کاست و ایستاد پایین آمد و دوباره از بغل کامیون بالا رفت و به توم گفت بیا بیرون بیا بیرون این تابلو رو نگاه کن توم به سرعت از زیر اساسی بیرون آمد و تابلو رو نگاه کرد بعد رو به مادر کرد و گفت دلتو میخواد همینجا کار کنی پن بچینی آره خوبه تو ولی تو چی ساحل رودخون رو دیدی پر از بوته و درخت بود من میتونم اونجاها قایم بشم هیچ که منو نمیبینه شب میتونی واسه سم غذا بیاریم پدر که پایین آمده بود گفت کار کردن تو پنبهزار خوبه بمونی مادر نگران بود رو کرد به تو فکر میکنی به اندازه کافی بوته و نهال هست که بتونی میونشون قاین بشی پس چی معلومه که هست من خوب نگاه کردم میمونم تا زخمام خوب بشه بعد منم میام کار میکنم اما جای زخمات باقی میمونه به درک که میمونه همه مردم جای زخم دارم حال پرسید حالا چیکار کنیم بریم یا وایسیم پدر گفت میمونیم همینجا کار میکنیم مادر نگران توم بود به او خیره شد توم گفت دل نگران من نباش مادر من میدونم چیکار کنم مادر گفت آخرش که چی پدر حرف آخر را راهی بهتر از این نیست. توم حرف او را تایید کرد و را افتاد. مادر نیمرخ او را میدید که در تیرگی شفف رو میرفت و در انبوه بوتاها و درختان کنار رودخانه گم می شد. دست گرفتن پنبه لذت بخش است. مهاجران آن را به نرمی نکه انگشتانشان می گیرند. ما می پنبه بچینیم. کیسه داری؟ نه نداریم. خیلی خب کیسه براتون یه دلار تموم میشه. کلوش از 150 کیلوی اولی کم میکنند. 80 سنت برای 100 کیلوی دفعه اول میدن. 90 سنت هم برای 100 کیلوی دفعه دوم. بگیرین. یک کیسه وردارین و شروع کنین. یک کیسه خوب تمام فست کار میکنه. وقتی رو زمین کشیده شد و پارش کردین، از اون روش رو استفاده کنین. دهنش را می دوزین و تهش رو باز میکنین رشته اینسان ها در میان که پنبه می جنبید. انگشتای کاونده، بوه ساقه ها رو میگرفتند و غوزه ها رو میافتند. من شر میبندم اگه کورم بودم از عده این کار برمیمادم کیسه من پر شده بادرم بدم وزنش کنن قپوندار میگه بعضیا توی کیسه سنگریزه میندان که سنگیتر بشه حق داره خب توی کیسه بعضی یا سانگلیزه ده همش گو. همش همشدعوا راستشو بگم امروز برای ما روز خوبی بود من و, و بچم سه دلار کار کردیم فین کن، دماغت پر پنبه شده، یالا انگوش ماهر غوزه ها را میشیدند کمرها خم شده و کیسه ها را میکشند وقتی شب فرا میرسد، بچه ها خستند کاش این کار طول بکشه موزش زیاد نیست، ولی راحته روی جاده اوتوموبیل و کامیون تازه وارد میستند می و به سمتی که تابلو زدن نگاه میکنند بریم پنبه چینی، خوب کاریه ببین چقدر آدم دارن کار می‌کنن. اونجا رو ببینین بیشتر از هزار نفر دارن همین دو میان اینجا فردا برای همین کار تو سر کله هم میزنند باید عجله کنیم و زودتر دست بکاشیم. کامیون ها و اتومبیل های غاضزه روی زمین مسطحی در کنار رودخانه به ردیف و پهلو صف کشیدند واگن هایی برای خانواده های مهاجر ردیف کردند و هر خانواده تا وقتی آنجا کار میکرد میتوانست از آنها برای خواب و استراحت استفاده کنند جادها در تای آخرین واگن بودند آنها شانس آوردن که واگن آخری را گرفتند بعد از آنها هر خانواده ای که رسید مجبور شد چادر بزنند کسانی که واگن گیریشان آمده بود به اصطلاح قدیمی قدیمیها و اشراف آنجا محسوب میشدند امروز چقدر کار کردیم؟ بعد نبو ما با همه خانواده تونستیم سه دلار و نیم کار کنیم کاش این کار دوم داشته باشه فعلا که خوبه بچه ها داره بهتر میشه مادرم واسه هر کدومشون یک کیسه کوچیک دوخته بچه ها نمیتونن های بزرگ رو بکشن. کیسه های خودشونو پر میکنن میارن تو کیسه های مخالی میکنن. کیسه بچه‌ها رو مادرم با پارچه پیرنای های درست کرده. زنها به دکان قصابی میرفتند انگشت سبابه روی لبها می و با دیدن قیمت سوت می‌زدند. این کتلت ها کیلوی چنده؟ کیلوی سی سنت خاوم سه کیلو بدین. یک کیلو هم گوش بدین با یه باتری شیر. دخترم وقتی زایمونشه. شیر خیلی دوست داره. روتی جعبه بزرگ بیسکویتی را در دست گرفته و پیش مادر میآید. آیند. چشماش و کاونده است. قبول کردن یا قبول نکردن مادر برای خریدن بیسکویت او را غمگین یا از شادی لبریز می کند. مادر به سر جشمان روتی. امدوگی در چشمه روتی پدید میآید. دوری میزند و می رود. نزدیک در فروشگاه دست وینفیلد را می گیرد و در سایه روشن شوانگاه به طرف واگن می روند. مردم به سوی چادرها و واگن ها روانند. هرکس چیزی خریده است. دود از دودکش ها بالا می روند. مادر به طرف واگن میآید و خریدها را جلوی روزاشاران می گذارد. مادر شیرم خریدی؟ آره دخترم خریدم. زودتر باید چیزی درست کنم و برای توم ببرم. ساعتی بعد مادر در واگن را گشود و با احتیاط از پله پای بخشه کوچکی در دست داشت. توی راه مردان و زنانی را میدید که جلو واگونها و چادرها نشسته بودند و گفتگو می کردند. بچه ها چابو و بازی می کردند. مادر با جلال از میانشان رد می شد. هنگام عبور اینجا و آنجا او را می شناختند. شب خوش خانم جاد. شب خوش. برای کسی غذا می خانم جاد؟ برای که از دوستان اون می برن. ازش نون بودم. هوا پر از دود بود، یکی سازدهنه میزد، یکی آواز میخواند یکی اربده میکشید. مادر از میان نیها و بیدهای کوتاه دو طرف رودخانه راهی را برید، از کوره راه دور شد و ایستاد، گوش داد، میترسید. دنبالش کرده باشند. دوباره راه افتاد، آنقدر آهسته که زمزمه آب صدای خفه پاهایش را بر برگهای مرده کوره راه در بر می گرفت. در فروغ پریدرنگ ستارگان، کنار رودخانه و سوراخ مجرای آب را که هر شب غذای توم را در آن شناخت با احتیاط پیش رفت بخچه غذا را در سوراخ راند و بخچه قبلی را که آنجا بود برداشت سپس بی سر و صدا به دل انبوی از درختان فرو رفت و جایی نشست از میان انبوه ها سوراخ مجرای آب را میدید زانوهایش را ها در بغل گرفت و خاموش منتظر ماند موشهای صحرایی بی سر و صدا کنار بوتهها میدویدند نسیم ملایمی برگها را آهسته تكان میداد یکباره بادی درختها را خنک کرد و بهمنی از برگ را در هوا چرخاند ابر زخیم و سیاهی در آسمان گذشت و ها را در بر گرفت قطرات درشت باران هیاهوکنان بر برک های مرده روی زمین فرود آمد مادر لرزید صدای پای ای را از سمت چپ شنید گوش به زنگ بر جا خشک شد سر را بالا آورد تا بهتر بشنود صدای پارا شناخت. هیکل تیره ای توم از نانگاه برخواسته بود و به سوی سوراخ مجرای آب میرفت مادر آهسته صدا زد. توم. توم بی حرکت ماند. مادر از نو صدا زد. توم. و صدای توم را شنید که مادر تویی؟ آره هنوز اینجا هم. بیام پیشه؟ قرار نبود بیای پیشم. آخه باید حرف دارم. باید ببینمت ممکنه یکی رد بشه ببینه. مگه جایی برای قایم شدن نیست هست ولی دوتای جا نمیگیریم خب فقط چند دقیقه خیلی خوب بیا ولی صدا نکن باید چهار دست و پا بیای مادر از جا برخاست حرکت کرد توم بغچهی غذا را برداشت و به سمتی دیگر رفت کمی تو توشکی از الف لابهلای بوتوهای بلند برای خود درست کرده بود همانجا خم شد و منتظر مادر ماند مادر با دستهایش زمین خیص را لمس کرد. و آرام و بی صدا پیش میرفت توم را در تاریکی نمیدید ولی صدای جویدن و بوق دادن غذا را میشنید از هم آنجا گفت زخمات چطوره خوبه دارن خوب میشد مادر دیگر نتوانست جلوتر برود از همون دو متری گفت توم بیا اینجا بزا دست بکشم به صورتت بیا کنار من توم چهار دست و پا به مادرش نزدیک شد مادر هم کورمال کورمال پیش رفت در تیرگی سر توم را یافت انگوشایش روی چهره طول بینی سپس روی گونه چپ توم لبزید. گفت توم باید هر چی از اینجا بری میگیرنید آره ما در میدونم باید برم ولی توم ما چیکار کنیم تورو چجوری ببینیم چطوری از حال روزند با خبر بشیم من چطور از حالت خبر بگیرم ممکنه تو رو بکوشان و من خبردار نشم ممکنه بهت صدمه ای برسه چطور خبر بگیرم بالاخره با خبر میشی مادر ولی من این سریم نمیشه مطمئن باش پس بیاتون من هر جوری بود از مزدمون یه پولی پسانداز کردم دستتو بیار جلو هفت دلار برا دو بردم من پول شما رو نمیخوام مادر گلی میخورم و میتونم از آب بیرون بکشم دستتو واکن تو اگه تو بی پول بری من دیگه خواب نمیرم ممکنی لازم بشه که ماشینی سوار بشی یا چیزی بخری باید از اینجا خیلی دور بشی من نمیگیرم مادر توم بگیر میشنوی تو حق نداری منو ناراحت کنی آقای کاری که تو میکنی درست نیست مادر من فکر میکنم شاید بتونی به یکی از شهرهای بزرگ بری مثلا لسانجلس به فکری کس نمیرسه که بیاد اونجا و تو رو پیدا کنه میرم یه جای خوب مادر خیالت راحت باشه کجا تصمیم گرفتی بری من باید بدونم تو. من همه جا هستم مادر. هر جا رو که نگاه بکنی همونجا هستم. هر جا که برای سیر شدن شکمه مردم جار و جنجالی را بیفته من همونجا هستم. هر جا که پلیس بخواد یکی رو نقشه زمین کنه من همونجا هستم. من تو فریاد کسایی هستم که از دور گشنگی از کوره در میرن و دادشون در میاد. من تو خنده بچههایی هستم که گروسنن و میدونن غیر از آبگوش وقتی که های ما چیزی رو که کاشتن و درو کردن بذارن رو میز خودشون. وقتی که توی خونههایی زندگی کنن که با دست خودشون ساختن بازم من اونجا هستم. میفهمی مادر؟ مادر گفت من که درست نمیفهم هم چی میگی توم؟ منم درست نمیفهم مادر. اینا رو فقط فکر کردم. خیلی خوب پس این پول بگیر و برو. توم یک دم خاموش ماند و توی تاریکی به طرف مادر خیر ماند. نمی توانست درست چهره مادر را ببیند ولی به او دست کشید و آخر سر گفت خیلی خوب میگیرم. مادر و پسر دستهایشان را به هم گفت کردند و برخواستند. انگوشتای مادر مچ پسر را جهانه نمیکرد بالاخره از لای بوتها و نحالها درآمدند و توم گفت به امید دیدار مادر. به امید دیدار توم. مادر این را با بغز گفت و میلرزید. به تندی دور شد چشمهای نمدارش خارخار میزد ولی گریه نکرد بارانی شروع به باریدن کرد توم در میان بوته و معالها گم شد مادر به طرف اردوگاه را افتاد شب با شتاب فرو افتاد. توی واگنها خانوادهها خود را به هم می میفشردند و به صدای باران که بر بام واگنها میبارید گوش میدادند آنها که در چادرها بودند وضع بدی داشتند باران شلاقکش پارچه چادر را سیراب کرد و در طول جدارها روان شد آنگاه آب بر چادرها مسلط شد و رخت را خیس کرد مردم توی چادرها روی زیراندازهای خیس نشسته بودند و منتظر بند آمدن باران بودند وقتی دیدند باران بند آمدنی نیست ها را آوردند و روی تختهها نشستند آب به سیم حمله حملهور شد و اندک روشنایی اردوگاه را نابود کرد بالاخره مردم مجبور به عزیمت شدند ولی اتومبیل‌ها راه نمی‌افتادند. زیرا باران به درون موتور ماشین‌ها نفوذ کرده و سیم‌ها اتصالی پیدا کرده بود. وقتی هم موتور روشن می‌شد، ها در گل انبوه می‌گشت و پیش نمی‌رفت. مردم پیاده راه افتادند. با لحاف هایشان به آب می‌زدند به دشواری پیش می‌رفتند. در هر قدم آب را به اطراف می‌پاشیدند. بچه‌ها و پیرها در آغوش جوان‌ها برده می‌شدند. انبور آدم‌های از سرما مچاله شده بود. وحشت آنها پاشیده رنگ خاکی ترس را بر چهره حس می کردند. بچه های گرست گریستند و غذایی یافت می شد. سپس ناخوشی ها فرا رسید. و سرخک که به چشمها و استخوان پیشانی حجوم می آورد. باران پیوسته می بارید و جاده بزرگ را قرده می ساخت. آنگاه خوشهای انسانی که تا استخان خیس شده بودند به طرف مکان دیگر برای کار به لای زدند. برای گرده ای نان هر گونه خاری را کشیدند. میکوشیدند، بدزدند و دروغ بگویند. زیر دعاها و التمازهایشان خشمی امید باربر میشد گرسنگان در برابر دکانهای توی راه نان گدایی کردند. سبزیجات فاسد را برداشتند و اگر فرصتی یافتند چیزهای کش رفتند. باران مدام فرو می ریخت. رودخانه ها کردند و کشور را گوته بر بینواها ها همچنان در جاده های دراز مغرب سرگردان بودند خانوادههایی بودند که تا قبل از این آبارگی روی قطعه زمین اجاره زیسته بودند تمام هستیشان روی همان زمین گسترده شده بود آنها روزیشان را کم یا زیاد از دل همان زمینها بیرون میکشیدند. اما حال در جستجوی کار سرگردان بودند پشت سرشان اده دیگری از راه می رسیدند و تمامی نداشتند از همه گونه اتومبیل و کامیون و باربر پر بود آنان را ماشین از سرزمینشان آواره کرده بود روی جاده انبوهشان کرده بود همراه با زندگی چادر چادرنشینی ترس از گرسنگی و بیکاری دگرگونیهایی در آنها به وجود آورده بود مشاهده بچه هایشان که چیزی برای خوردن نداشتند آنان را تغییر داده بود بیابانگرد شده بودند نفرتی که در هر جا با آن میخورند، آنان را عوض کرده بود جوش داده بود متحد کرده بود امواج آنها روی جاده ها در مغرب دلهره ایجاد کرده بود مالکین به خاطر دارایی هایشان به خود می‌لرزیدند می‌گفتند اینها ناخوشی را همراه خودشون می‌آورند با جلوشون رو گرفت نفرت انگیز هستند ما نمی‌خوام اونا در مدارس مریخ نکنند اینا بیگانند شما می‌تونید بپذیرید که خواهرتون با یکی از این موجودات معاشرت کنه مزدوران احمق خوشباور سرشان را بلند می کردند و همگی به حدی تحریک می شدند که دیگر چیزی جز وحشیگری و چینه بیامان نبودند آنگاه دسته ها و جوخه های تشکیل می دادند و به چوبان و نارنجک های گازدار و تفنگ مسلح می شدند. مسلحشان می کردند به آنها می گفتند این مملکت مال شماست باید این غریبه های لجن را له کرد و کسانی که اسلحه گرفته بودند مالک نبودند بلکه چونین تصور میکردند که مملکت مال آنهاست. مهاجران همچنان روی جاده های بزرگ پخش می شدند و گرسنگی و فلاکت در چشمهایشان دیده میشد. وسیله ای داشتند که به خاطر آن دیگران ارجشان بگذارند و نه راهی برای این کار میشناختند. چیزی نداشتند جز انبوه خود و نیازمندی های خود. وقتی که کاری برای یک نفر پیدا میشد ده نفر معرفی می و آن ده نفر با صل کاهش مزد، یک دیگر را تغییر و خرد میکردند حتی میزدند اگه این یارو با سی سنت کار میکنه من با 25 سنت کار میکنم اون با بیست و پنج سنت کار میکنه من با 20 سنت حاضرم سب کنین سب کنین من گشنمه با پونزده سنتم کار میکنم من برای یه شکم خوراکی کار میکنم من بچه هم به خاطر خوردن میوهی گندیده شکمهاشون باد کرده منو قبول کنین حاضرم برای یه تیکه گوشت کار کنم کسب و کار یک دی رو به راه بود. موها همچنان پایین میآدند و جریان ادامه داشت. مالکین بزرگ دستایشان را به هم میمالیدند. اعلامی های بیشتری چاپ میکردند تا باز هم انبوه بیشتری را به سوی کار خود جلب کنند. در جادهها به شمار تشنگان کار به شمار زعج دیدگانی که برای یافتن کار از آدمکشی هم باک نداشتند افزوده می شدد. باها از میوه لبریز بودند و جاده از گرسنگان انبارها لبریز از محصول بود و فرزندان بیچیزان به استخوان سستی مبتلا می شدند و کورک همه جای بدنشان را فرا می گرفت. شرکتها، بانکها و کمپانیها ندانسته گور خود را می کندند. نمی دانستند که گرسنگی را از خشم جدا می کند خیلی نازک است. به جای افزودن به موزدها، پولشان را در راه تهیه نارنجکهای گازدار، هفتیر، استخدام محافظ، تهیه لیست سیاه، و دست آموز کردن گروههای جیره خار به کار می بردند. روی جاده های بزرگ مردم مانند مورچه در جستجوی کار و نان سرگردان بودند و خشم باربر میشد. هزاران نفر همچنان در جاده‌ها به سوی مغرب می‌رفتند. 300 هزار نفر فقط نزدیک کالیفرنی بودند و باز بازم میرسیدند. تمام جاده های منتہی به کالیفرنی لبریز از زجر دیدگانی بود که به هر سو می‌دویدند. مثل مورچه و هر سو در جستجوی کار، هر کاری، هل دادن، کشیدن، برداشتن، بردن، آوردن، هرچه که بود. برای برداشتن یک بار، پنج جفت بازو دراز می شود. برای یک سهم غذا پنج دهان باز می شود. زمینداران بزرگ گوشهایشان را قفل میکردند تا هشدارهای تاریخ را نشنوند. تمام کوشش آنها صرف افزودن به فشار می شود. جاسوسانی داشتند که ناچیزترین حوث شورش را هدف می گرفتند. طوری که هر تلاشی برای جنبش در نطفه خفه شود. آنها به فکر تحولات اقتصادی نبودند و به اصلاحات علاقهی نداشتند. در بند چیزی نبودند جز سرکوبی شورش. در حالی که خودشان تمام عدد شورش را به جا گذاشتند. آنها برای حمایت از یکدیگر دیگر تشکیل دادند. و برای گفتگو درباره چگونگی سرکوب و چگونگی کشتن جلسه گذاشتند اما همیشه این تهدید وحشتانگیز خاطرشان را رنج میداد که سیسد هزار نفر اگر زیر فرمان رهبری گردایند دیگر کار تمام است سیصد هزار بدبخت گرسنه اگر به نیرویشان پی ببرند کشور را خواهند گرفت و آنگاه نه تفنگ نه نارنجکهای گازدار جلوشان را نخواهد توانست گرفت و زمینداران بزرگ که از خلال پیچ و خم های ارضی اندک اندک پروار شدند به سوی نیستی میدوند و به هر ای دست میزنند وسایلی که بالاخره به مرگ آنها منتهی میشود هر وحشیگری آنها و هر دستگیری و کشتن بینواها ممکن است سرنگونی را اندکی عقل اندازد اما آن را بیشتر اجتماع پذیر می کند. زمینداران میدانستند که روزی دعاهای فقیران پایان کار آنها رو رقم خواهد زد جوان ها بیرون می رفتند نه برای گدایی برای دزدی، زمینداران پاسبان های تازهی به گرفتند و سلاح های سفارش دادند. آدم های آسوده که توی خانه هایشان خانه های در جای گرمونن می شسته بودند نخست دلشان برای مهاجران سوخت سپس از آنها بدشان آمد و بعد به آنها کینه ور شدند مردها. درون چادرهای برافراشته در کناره جادههابی ادام میمرند و مردان جوان آنها را به خاک می و دوباره حرکت می کردند. زنها مردهایشان را به دقت نگاه میکردند. در کمین واکنش آنها بودند و از خود میپرسیدند آیا می اینبار این بار قصر در رفت. زمانی که مردها گرد هم می آمدند، ترس از چهرههایشان زدوده می شود. تا جای خود را به خشم واگذارند. آن وقت زنها، آه تسکین دهندهی میکشیدند. میدانستند که کارها بالاخره رو به راه خواهد شد باران که بند آمد دوباره کار و فعالیت از سر گرفته شد مردم جای دیگری برای کار پیدا کردند و دست به کار شدند جادها نیز جایی را یافتند و مشغول شدند و در واکنهای جدید جای گرفتند خانواده جاد در میان آوارگان اسم و رسم یافت خانواده ای از میان مهاجران با آنها خبر داد که آل آشورا دخترشان شده و آنها نیز راضی به این وصلت هستند. مادر و پدر اول باور کردند اما فهمیدن ماجرا حقیقت دارد و خوشحال شدند. خیلی زود آگی دختر 16 ساله خانواده وینریت به جمع خانواده جاد پیوست. چند روزی که سفری شد، آقای وینریت آمد و به جاد ها گفت: "معقیده من بهتر از اینجا بریم." پدر به آل نگاه کرد. سپس با آقای وینریت گفت: شما که این سرزمینو میشناسین میدونین که هیچ معلوم نیست بتونین جایی بهتری پیدا کنین. میدونم اما با این همه. آل پرید سط حرف پدرزنش و روح پدر خود گفت پدر اگه اینا برن منم باشون میرم. پدر با نفرت گفت تو نمیتونی این کارو بکنی آل. کامیون پس ما که بلد نیستیم کامیون برونیم. به من چه؟ منو آگی نمیخوایم از هم جدا باشیم. اگه آگی بره منم میرم گوش کن آل هنوز حرف پدر تمام نشده بود که صدای جیب رزوشارون شنیده شد همگی دویدند مادر هم آمد رزوشارون درد میکشید و شکمش را سفت چسبیده بود آگی و مادرش هم به سرعت آمدند مادر آگی چند بار بچه به دنیا آورده بود و میدانست باید چیکار کند رزوشارون منقبض شده بود و زار میزد او را روی توشک دراز کردند به پیشانیش را خوشکاندند و او در حالی که خرخور خفه سر داده بود مشتایش را دیوانه بار می پدر رو باقال کرد ببین پس اگر هم بخوایم فعلا با این حال روزشارون نمیتونیم را بیفتیم. خانم وینرییت به کمک دخترش آگی و زنهای دیگر واگنها سخت به کار زایمان مشغول بود جیغهای های تمامی نداشت. محیط از بوی زایمان آکنده شده بود چیزی نگذشت که خانم پیش پیش پدر آمد آرنجش را گرفت و به گوشه کشید سپس فانوسی را روی یک روزنامه روی زمین پهن بود گرفت کوچولوی لاغر کبود و چروکیدهای روی روزنامه دراز کشیده بود خانم وینرید یواش گفت حتی نفسم نمیکشه مرده به دنیا اومد جان خودش را جمع کرد رویش را برگرداند و پس رفت پدر چشمهایش را بهسوی خانم وینریت گرفته بود و از تعجب نمیدانست چه بگوید؟ روتی و وینفیلد بیتفاوت بودند و چیزی نمیگفتند. مادر گوشه افتاده بود و ازار میزد لبایش سفید و سخت شده بود باران به نرمی روی بام فرو میریخت. خانم وینریید به مادر گفت: خانم جاد چرا نمی استراحت کنید؟ من پیش روزا میمونم. شما به ما خیلی محبت کردین خانم وینریید خیلی ازتون ممنونم دیگه واسه نخورنید نمیشد نجاتش. دارد. هلاله پا را فرا گرفته بود و باران تازیانه می‌زد. جویبار کوچک تهدید میکرد که از کنار خواهد گذشت و بر زمین یک دست پایینتر آنجا که ها روی آنجا گرفته بودند، قلعه خواهد یافت. دومین روز باران، های جاد و وینرایت در کنار هم میشستند و برای ماندن یا رفتن حرف زدند. ها خراب بود. مادر غمناک به خواب رفته بود و خانم وینرایت موازه به حال خراب رزاشاران بود باران چون سیلاب مداونی بر بام تقریبا صاف واگن فرو میریخت آب رودخانه تقیان کرده بود و اردوگاه را که بر سراشیبی دشت بنا شده بود دور میزد پدر رو به برادرش جان کرد و گفت جان چی میگی به من اگر همینطور آب بالا بیاد هممون هم قرق میشیم. جان سر تکان داد آره خیلی احتمال داره پس چیکار کنی اگه همه تصمیم بگیرن و یه چیزی مثل سرد بکشن قول میدم جلو آب گرفته بشه بارونو چیکار میکنی که همینطور داره میباره آره آنم تا مغز استکون آدم خیس میشه مادر همهاش توی خواب میجنبید و روی توشک پیچ و میخورد خانم وینرید که بیدار مانده بود پا شد و به مردها که نشسته بودن گفت چشمم آب نمیخوره که به این زودیا از اینجا بریم بعد به گوشه واگن آنجا که روزنامه پن شده بود اشاره کرد و گفت این نمیشه اینجا بمونه غیر از عذاب و بدبختی هیچ چیز دیگه در کار نیست نمیشه کاری کرد برین یه جایی خاکش کنین مردها همچنان خاموش بودند به پدر گفت راست میگین موندنش مثل ما گناه داره اموجان جان قبول کرد که بچه مرده را بردارد و ببرد خاکش کند وقتی برگشت، همه به جز خانواده ای وین ریت آماده رفتن بودند. مادر با لحن مصمم می گفته بود از اینجا میریم. میریم یه جایی بهتر پیدا کنیم. اینجا دیگه نه پدر اعتراض کرد و این مادر گفت باید بریم. حالا که بارون بند اومده باید استفاده کرد. آخه آل نمیاد. اون باد کامیون رو برونه. نرونه. پیاده میریم. تو فقط روزشاران رو برسون لب جاده. بعدش برگردی بر. پدر دید ناچار است قبول کرد و آماده شدند آل بار دیگر گفت مادر من با شما ها نمیام چرا نمیای، هیچی به خاطر آگی میدونی من و اون مادر لبخندی زد گفت باش همینجا بمون اما موازه به اساسی باش وقتی آب بارون فروکش کرد اون وقت ما برمیگردیم و به پدر گفت زود باش تا بارون دوباره شروع نشده به رزاشاران کمک کن بریم سر جاده رزاشاران گفت من میتونم را بیام. همه آماده شدند و راه افتادند. پدر و اموجان روتی و وینفیلد، مادر و روزشارون از های غرق شده در آب دور شدند و به طرف جاده رفتند. لب جاده باران دوباره شروع به باریدن کرد. حوصله پدر سر رفت. داد زد. خب رفتن و میریم اما کجا بریم آخه؟ مادر هم داد زد. چه میدونم؟ باید جای خشکی پیدا کرد. باید پیدا کرد. به کندی خودشان را پیش میکشیدند هم همه آب را اون سیلابی که در طول جاده را افتاده بود میشنیدند آسمان تیره و باران تونتر شد جاده خالی بود مادر گفت عجله کنیم پدر با صدای بلند گفت آخرش نگفتی عجله کنیم کجا بریم مادر گفت را بیا به یه جایی رسیم آنها گرسنه بودند و خشمگین امیدوار بودند جایی را بیابند که هم کار کنند و هم دردهسری نداشته باشند هر جا تا به بودند، جز عذاب و مصیبت ندیده بودند و کاری هم وجود نداشت که ارزش ماندن داشته باشند. از صاحبان اردوگاه و شرکت‌های میوه‌چینی و چینی نفرت داشتند. زیرا آنها مالکانی چاق و شادخوار بودند، در حالی که خودشان گرسنه بودند و شاید از پدربزرگشان بود که شنیده بودند وقتی آدم گرسنه می شود، آماده هر کاری هست. دکاندارها از آنها نفرت داشتند، زیرا آوارا پول نداشتند خرج کنند آنها هرگز به بیپولها روی خوش نشان نمیدادند زیرا هیچ آبی از ندارها گرم نمیشد و آه در بساط نداشتند بیزمین شدگان مهاجران تازه دویست و پنجاه هزار نفر سیسد هزار نفر حتی بیشتر همچنان در جاده ها حرکت میکردند پیاده و سواره درست مثل خانواده جاد که پیاده به سمتی میرفتند نمیدانستند به کجا می روند. پشت سر آنها ایلغار هولناک ترافتورها داران دیگری را آواره می کردند و پیوسته افراد تازهی به قبلیها اضافه می شد آنگاه که اهالی کالیفرنی هزاران هوس داشتند سربتهای انباشته موفقیتهای ایاشانه شادکامیها تجملات و امنیت بانکی مهاجران و به قول آنها بربرهای جدید بیش از دو چیز نمی خواستند، زمین و خوراکی و برای آنها این دو چیز یکی بود اگر آرزوهای اهالی کالیفرنی در هم و گنگ بود مال مهاجران مشخص و هر آن قابل اجرا بود آرزوی آنها در تمام طول جاده همون نزدیکی زیر چشمهاشان و در دسترسشان گسترده بود پشزار و زمین یک مرد گرسنه و بیخانمان که با زن و فرزندان لاغرش در صندلی عقب یک ماشین قرازهٔ کرایهای جادا را میپیمود وقتی میدید این زمینها بایر افتاده است احساس میکرد که بایر انداختن زمین گناه است نکاشتن خاک جنایتی است علیه بچه های گرسنه و این مرد همچنان که راه میپیمود در کنار هر دشت با این وسوسه آشنا میشد که از دل خاک سلامتی فرزندان و اندکی آسودگی برای زنش بیرون بکشد وسوسه همیشه پیشا پیش او حرکت میکرد منظره اینکه احزارها او را برمیانگیخت و خشمناک میکرد وقتی به جایی می رسید که میدید پرتغال های طلایی از شاخه ها آویزانند، ارتش بزرگ تفنگاران را هم میدید که پرتغال را مواظبت می کنند. نگهبانانی که مواظب بودند اگر مردی میخواهد برای بچه پرتقالی پرتغالی بچینند نگذارند. این مرد در همان اب تاره کنه وقتی به شهری می رسید در جستجوی کار تمام آن نیه را زیر پا میگذاشت و نمیدانست شب بازن و بچه کجا باید بخوابد. یکی می به این کنار رودخونه همه مهاجرا اونجا اتراخ کردند شهر آوارگان در کنار آب جا داشت آنجا چیزی جز سودهی در همه چادرها کلبه های مقوایی و در مجموع انبوی از خوردهریزهایی بیشکل نبود مردها تا آنجا که میتوانستند در نزدیکی آب چادرشان را برمیفراشتند اگر چادر نداشتند به جستجوی تکه مقوایی آشخالدانی های شهرداری را میکاویدند و منزلی از مقبا پاره ها میساختند و با نفستین باران خانه ها آب میشد و بر سر ساکنانش فرو میریخت. شبها مردها مرد کپه و صحبت میکردند روی پاشناهاشان چنباتمه میزدند و از زمین هایی که بیمصرف مانده بودند حرف میزدند و آن طرف کناره مغرب سی هزار جریب زمین بیمصرف مانده بود همینطور بایر افتاده بود خدایا. اگه این زمین را دست من بود، اگه فقط پنج جریبش من من بود، هزار کار باش میکردم. مسابقه برای پیدا کردن کار و جای مناسب وحشتناک بود. آواره مثل دزدها شب حرکت میکردند تا دیگران در خوابند بتوانند پشت درها صف بکشند. جستن کار دیوانشان کرده بود. در تمام طول راه وسوسه در کمینشان بود. این زمین صاحب داره. بریم جای دیگه. اینم جای دیگه خلوت خب شاید بشه گوشه کوچیکی از اونا تصاحب کرد یه گوشه خیلی کوچولو فعلا غیر از خار و خس چیز دیگه ای توش نیست خدایا من میتونم از همین قطعه کوچولو انقدر سیب زمینی بیرون بکشم که تموم نونخورام سیر بشن ولی مال که نیست گفتم باید همین جوری بمونه تا توش فقط خار و خس سبز بشه گاهگاه گاه مردی دل به دریا میزد دزدانه به درون قطعه زمینی که دم دست بود میسورید گوشه کوچکی از آن را پاک کرد و میکوشید اندکی خاک آن را به دست بگیرد و بو بکشد ناگان یک نفر پیدا میشد بگیم ببینم اینجا چیکار میکنی کار بدی نمیکنی نه من شما را می پاییدم قانون و زیر پا گذاشتین این زمین که مال شما نیست صاحب داره زمین که شخم زده نبود کار ما به کسی ضرر نمیزنه باشه ولی ان داشتیم بیاین توش شما ها یکی هستین کسیسی نکبت اگه همینجوری بذرانتون یه و یه روز صبح صداتون در میاد که زمین مال خودمونه. از شما برمیاد که خیال کنین مال خودتونه بهتر فورم زحمت رو کم کنین. یلا بزنین به چاک. پلیس حق داشت او خودش یک قرینه مالک بود به او گفته بودند که باید بی معطلی هر کس را که از کنار زمین رد شد از آنجا دور کرد چون آوارها ازشان برمیآید برای تکه زمینی که خار و خاروخس‌ها گم شده و آنها پیدایش کردند جانشان را هم به خطر بیندازند دیدی وقتی بهش گفتی برو بیرون چطور داشت؟ اون یه دشمن خونیه از من داشته باش اینا رو باید جاکنشون کرد اگر نه تمام مملکتو میگیرند تمام مملکتو اینا خارجی ان درسته که امامو به یه زبون حرف میزنیم اما زمین تو آسمون به ما فرق داره همینقدر که بری ببینی چه جوری زندگی میکنن کافیه خیال میکنی ممکنه که ما اونجوری زندگی کنیم؟ آه غیر ممکنه شبها وقت چنبات مزدن و صحبت کردن بود ناگاه یکی از جادر میرفت و میگفت چرا یه بیستایی از ما با هم جم نمیشن و یه تیک زمین رو نمیگیرن؟ توفن که میشه و برد چرا این کار دیگری میگفت سرکشم رو میکنم خب بکن یعنی این جور زندگی کردن از مردن بهتره زیر خاک بودن بهتر از زیر گونی پاره بودن نیست؟ کدومی که از این نارو بیشتر برابر چار میخواه؟ یه مرتبه بمیرن و راحت بشن یا بعد از دو سال از نخوری بمیرن کدومشو؟ میدونین بعضی آباره هامون سر تا سر هفته چی میخورن؟ حریره گزنه که نون توش دیید میکنن میدونین آرد رو از کجا به دست میارن؟ از جارو کردن طی واگن کثیف بدبو و این حرفها در ها و هر جا که آوارگان بودن میپیچید پاسپانهای های و سرخ و سرین گنده با هایی که روی رانهای کلفتشان تلو تلو میخورد و با افاده از میان گروه آوارگان میگذشتند و با خود میگفتند رو باید آدمشون کرد باید بهشون فهموند که اینجا خونه خاله نیست اگه جلوشونه نگیریم غیرممکن آروم بشینن و کار کنند اگر نپایشون این گرازا همه کار از برمیاد بهت بگم اینا به اندازه سربازای سیاه جنوب خطرناکن. تا غافل بشی ازشون متشکل میشن و دیگه هیچ چیز نمیتونه جلوشونو بگیره اگر از من میشنفی مثل مار میمونن نباید ازشون خاطر جمع شد تا خواستن یک و دو کنن باید زد و کشتشون راهش اینه که از اونا بیبوتتر بشی و بهشون زور بگی غیر از زور هیچ راه دیگهی واسه نیست باید کاری کرد که سگ اگه چی؟ اگه ایستادگی کنند و توفنگ بکشن اینا از جوونی دست به تیر بودن توفنگ جزی از وجودشونه اگه ناگهان با هم متحد شدن و لیختن روزده چیکار میکنی؟ چطوری میشه کسی رو که شکمش فریاد گرسنگی میکشه و روده های از نخوردن به پیچه تاب در اومده ترسوند؟ اونو هیچ چیز نمیترسونه چون خودش بدترین ترسا رو دیده آره راست میگه منم موافق نیستم. اینجوری خوب نیست. در همه جاده در همه اردوگاه‌های های کار، در همه زمین‌ها، زبان‌ها زبان ها رای خود را میپهیم آنگاه حرکت ها آغاز میشند پاسبان‌های مسلح در اردوگاه‌ها، در زمین دزدها مستقل میشدند کوچ کنین، دستور بزارت بهداریه، وجودتون برای سلامتی مزره کجا بریم؟ چه میدونم؟ به ما دستور دردن شما را دک کنیم تا نیم ساعت دیگه چادر و آتیش میزنیم تو بعضی چادرها حسبه پیدا شده به ما دستور داند شما را دک کنیم. بزنیم به چاک. هنوز نیم ساعت نگذشته خانه های مقبوایی، علفی و چادرهای پارچهای دود می و به هوا می روید. انسانها، آوارگان، بینواها و مهاجران دوباره در شهرها به جستجوی کار را یورش از جانب کانزاس، آرکانزاس، اوکلاهوما، تگزاس و نیومکزیکو، سمگین تر می شود تراکتورها کسان دیگری را بیرون می رانند خانواده پراکنده شده جاد نیز در میان مهاجران دیگر جاده را در آرزوی پیدا کردن مکانی مناسب می پیمودند مادر تمام جاده آب گرفته را با چشم می کابید. خستگی نمی شناخت دیگران را هم وادار به مقاومت می کرد نادهان در طرف چپ جاده انبار سیاهی روی بلندی کوچکی به چشم خود با صدای بلند گفت نگاه کنین اونجا نگاه کنین من حتم دارم که تو این انبار میشه مدتی موند بریم تا بقیه ندیدنش روتی و وینفیلد پیش دویدند روزاشارون از خستگی رمغی نداشت مادر زیر بغلش را گرفت و راهش برد مردها با ناباوری جلو رفتند روزاشارون تا قد نیاورد توی گودالی نشست مادر گفت تنتر بریم ممکنه رگبار بگیره زود باشین حالا دیگه وقت دست دست کردن نیست. مادر دخترش را از گودال بیرون کشید و به او کمک کرد تا از پرچین رد شود همان موقع طوفان قرید و ستل ستل آب رویشان سرازی شد اما به سختی از میان گلولای گذشتند و جلو رفتند انبار سیاه در زیر باران به سختی دیده میشد رزاشارون پی در پی سر میخورد حالا دیگر خودش را ول کرده بود تا دیگران بکشندش مادر گفت بیاین کمک پدر خند شد و دخترش را بغل کرد روتی و وینفیلد نگاهشان میکردند دوروبرشان میدویدند و از روی زمین گل میچیدند رسیدن به انبار سخت بود اینجا و آنجای انبار افزارهای زنگزدهای افتاده بود یک خویش گاواهن یک خرمنکوب شکسته یک چرخ آهنین باران به شدت بر روی بام انبار ضرب گرفته بود پدر به نرمی رزاشاران را روی جعبه چوبی گذاشت مادر دستور داد بگردین چوب پیدا کنین تا آتیش روشن کنیم. و به دخترش گفت دراز بکش دراز بکش تا آتیش روشن کنیم و خوشکت کنیم پدر و اموجان رفتن هیزم خشک پیدا کنند ناگهان وینفیلد آمد و گفت مادر اونجا رو نگاه کن مادر نگاه کرد در تاریخ روشن انواری آن گوشه دو هیکل را تشخیص داد یکی هیکل مردی که به پشت خفته بود دیگری هیکل جواناکی که در کنار وی نشسته بود و با چشمهای بهت زده تازه واردان را مینگریست پسر جوان که دید زن نگاهش میکند آهسته برخاست و به جانب او آمد با صدای زمختی گفت این انبار مال شماست نه ما هم به اینجا پناه آوردیم دخترمون ناخوشه بچش مرده شما یه رو پوش خوش نداریم بهش بدیم که بتونه لباسهای خیسش در بیاره؟ جوانک از زیر یکل مرد خفته یک تاقه شال چرکین درآورد و به مادر داد مادر گفت خیلی ممنون این آقا چشه اون ناخوش بود حالا داره میمیره از گشنگی داره میمیره شش روزه هیچی نخورده پدرته آره دیگه نه حرف بزنه پدر و اموجان از بیرون چوبهایی پیدا کردند که خشک بود آمدند داخل انبار و با دیدن مرد جوان و مرد خفته ساکت شدند مادر با دیدن آنها جرأت پیدا کرد کنار مرد خفته زانو زد و گوشش رو نزدیک کرد لبهای مرد از نو جنبید مادر رو به پسر کرد گفت فکرش نکنی. فقط صبح کنین تا دخترم خشک بشه الان خیس خیسه بعد رفت تا روی آتشی که پدر و اموجان روشن کرده بودند لباسهای رزاشاران را خشک و عوض کند جوانک ناگهان فریاد زد داره می میره. داره جون میکنه باید بهش شیر داد شما پول داریم برم خود شیر باسش پیدا کنم مادر گفت آرون باش دل وا با پس نباش من برای شیر میارم چشمای مادر به سوی پدر و اموجان برگشت بعد به روزشان خیره شد. دو زن درون چشمهای هم دیگر را نگاه کردند. تنفس زن جوان کوتاه و بریده بریده بود. به مادر گفت: « خیلی خوب باشه. مادر لبخند زد. میدونستم تو این کارو می کنی. میدونستم. باران به نرمی روی بام انبار میبارید. رداشاران لحظه ای فکر کرد سپس خودش را درون روپوش پیچید. آماده میشد تا شیرش پیرمند گرسنه را به زندگی بازگرداند. چشمایش را بالا آورد. بعد آنها را پایین انداخت و در سایه انبار دورو برش را نگریست آنگاه لبهایش با لبخند مرموزی به هم چستید